گوش میکنی میخواهم از کنار همین پنجم به حرفی بزنم حالا که دارم از یاد میروم دارم سکوت میشوم میخواهم آشناترین صدای این حدود تازه شوم گوش میکنی تنها منم که آشناترین صدای این حدودم تنها منم که آشناترین صدای هر قدودن حالا هرچه باران است در من برف می شود هرچه دریاست در من آبی حالا هرچه پیریست در من کودک هرچه ناپیدا در من پیدا حالا هرچه هر روز و بعد از این هرچه پیش رو منم که از یاد می روم. آغاز می شدم. و پنج شنبه نزدیک من است جهان را همین همینجا نگهدار من پیاده می شود. سلام بعد از ظهر پنج شنبهمون به خیر امروز 8 مه ماه یعنی 8مین روز پاییزی سال 95 برابر با 29 سپتامبر در در صدر نمود چهارمین روز از سال 95 و پنج و در دویست مین روز از سال دو میلادی من فرشید منافی من شهرام ابراهیمی من جلال سعیدی من سعید حابیل در دومین ایستگاه شنبه به مدت چهار ساعت با شما و در کنار شما هستیم زنده و مستقیم از رادیو فردا ای جار ای جار منه بس آنو گردش تقدیر بگردان ای جان ردی خبری پیک امیدی بفرستم تا کور شود چشمه تاری که حسود به سمت من یاور هم روان کل صبرم به سر رسیده ف او من بگو گو از روز قلب او رنگز را خم پریده فوق از شبی که بیادش سرد شود هرگز چنین نباشد. با ری‌پیکو می‌دی بفرستم تا کور شود چشمه توری که حسو خوشحالم خود که برگشتید به شنونده‌مونتون میتونیم بگین از طریق تلگرام هم میتونن برنامه رو به خوبی هر ساعتی خواستهن بشنون بله بله ممنونم از تماس شما از طریق تلگرام از طریق کانال تلگرام ایستگاه پنجشنبه هم میتونید برنامه ایستگاه پنجشنبه رو بشنوید مونتاها نه امروز فردا از فردا میتونید این برنامه روی کانال تلگرام هم بشنوید برگشته با یه برنامه توپه دیگه عججات خالی نبوده من رفتم آرشیو رادیو فردوس سال 89 تا اینور همه برنامه‌های رادیو پاس فردا رو دوباره گوش دادم مسعود هستم از برزیل دوست داشتنی اونم بله بنت برام مسعود جون فدای تو خیلی سلام رو به برزیلیا برسون ممنونم از تماس شما دیگه رادیو پاس فردا که گفتیم خدا میامرز شد ولی خب اونایی که همچنان میرن و اون برنامه‌های قدیمی رو گوش میکنن وکل نداریم میتونین برین گوش کنین و لذت ببرید ولی از این به بعد پنج ها 3 تا 7 به صورت زنده از رادیو فردا با ایستگاه پنج با شما هست پرشید جان این سعیدتون ها قابلشونه یا قابلشونه <تصفيق> کلی فرقشه ما باید بدونیم این زده داششو کشته یا داشش زده این کشته نه اون قدیمایی بوده دیگه الان مسائل خانوادگی و سال ها میکنیم کنیم. غابیل، الان بذار غابیل صداش کنیم از این به بعد. نه دیگه ما هابیلیم همه گی هابیلیم. همن هابیله، امداداش هم هابیله. برادر غابیل نادری. غابیلی. کلان هست گریم خوب. خوبی. اولمند، ممنون سعید، غابیل هم در ایسکایپ پنجشنبه با من همراه در این ایسکایپ پنجشنبه هشتم مهر. و چه خبر هفته پیش ما راجع به چالش گویندگی صحبت کردیم یه خبری به اونهایی که دوست داشتن شرکت کنن و اونهایی که اول دوست داشتن شرکت نکردن بده ببینیم که چطور دقیقاً آره استقبال خیلی خوبی شده یعنی از لحظه‌ای که پنجشنبه هفته گذشته تو اعلام کردی توی برنامه هم. کلی ایمیل دریافت کردیم میشه گفت که حدوداً ساعتی یه دونه ایمیل داشتیم تا این لحظه تا امروز صبح هم ادامه داشته و کل خیلی استقبال خوبی شده از چالش گویندگی آره ولی برای همه اونهایی که فرستادن ما این متن برنامه رو نفرستادیم ولی اونهایی که برای ما ایمیل زدن و میخواستن در چالش گویندگی شرکت کنن منتظر باشن در چالش گویندگی هفتی آینده میتونن شرکت بکنن اونهایی که برای ایمیل فرستادن نشده یعنی متنه برنامه هفته آینده رو براشون به زودی میفرستیم تا بتونن در این چالش شرکت بکنن امروز هم اونایی که صدا فرستادن برامون نه همه شون ولی خب بعضی میتونن صداشون رو در همون بخشی که اجره کردن بشنون بازم برمیگردیم بهت سعید توی بخشای هستن. دیگه استگاه پنج ات رادیوفردا ایمیل ماست استگاه پنج ات رادیوفردا پنج عددی این ایمیل ماست و از طریق فیسبوک هم میتونید با ما در تماس باشید و میتونید برمون کامنت بذارید تلفن های تماس ما دو سه چهارصدو دو و صدو هست و همچنان میتونید از طریق اپلیکیشن رادیو پاسبرد خدا مرز صداتون رو به گوش ما برسونین اونایی که میرین توی اپلیکیشن برای فرهادم هم برین یه مسیج بزنید بگید بابا اینو اپدیت کن دیگه چی شد پس فرهاد اپدیت کنین اپلیکیشن رو بابا قربود اسمش عوض کنی هنوز رادیو پس وقتا خدا بیامورد شده همچنان با همون اسمه ولی شما میتونید همچنان صدا رو به ما برسونید برای فرهاد حتما برید مسیج بدید ایمیل بدید بگید آقا اینو درست کن بله پنج شنبه ها بعد از ظهر آمدن دلش چی میخواد کله پاچه نمیگه برطرفونه مامانینا اجازه میدی خاله و آقایون همه اینا رو ما هم پایتون هستیم ولی نظرتون در باره ی برنامه چی برنامه‌اش فزیویش برنامه برنامه برنامه برنامه نه برنامه دورانه برنامه مستمر ببینید نه نه یه برنامه ی رادیویی زنده از رادیو فردا حالا اسمش چیه ایستگاهه؟ ایستگاهه. جوان پیاده بعد ای ایستگاه جوان مرد قاصد ایستگاه بعدی بابا ایستگاه شنبه چند شنبه، پنج شنبه، پس شنبه؟ ازند جامه. اومدیم به تبلیغ بکنیم با سین برنامه جدید ببین چیکار میکنن میکنند. آیا گذاشته؟ ایستگاه پنج شنبه برنامهایی درباره همه چی از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی، تا سیاست و ورزش و اقتصاد و تاریخ، و... جغرافی، شیمی، مواد نت دوباره یکی. هر پنج شنبه سه تا هفت بعد از ظهر من فرشید منوفی در یک برنامه زندگی چهار ساعته با شما هستم در ایستگاه پنج شنبه از رادیو فردا. اصاسا خانم آقایون اون دختر خانم آقا پسرا یکی از تفریحات سالمه بقدر کنید سالمه شب جمعه ما ایرانی ها فیلم دیدنه تفریح سالمیه دیگه ابتن اینکه حالا فیلم دیدن تفریح سالم محسوب میشه یا سالمه هم خب باز بستگی به فیلمی که میبینیم داره ولی منظور من همین فیلم های سینمایی معمولیه آخ آخ آقا یعنی پنجشنبه از سر کار میای خونه فکر کن سر را نیم کیلو تخمه بخری از اونورا برید دنبال فیلم حالا درست علات خیلی فیلم ها رو میشه دانلود کرد و الان دیگه از اینترنت میتونید تماشا کنید و اینها ولی خدایی بعضی از این فیلم فروشای کنار خیابونی یا این مغازهای ویدیو کلوب یا این فیلمیا که با سامسونت یا کولپشتی پر از فیلم میان در خونه یا تو شرکت یا اینا تو اداره میتونیم مثلا فیلم انتخاب کنی خیلی باحالن بعضی هاشون انقدر به‌روزن که فیلم قبل از اینکه تو آمریکا و اروپا بر روی پرده میری تو بساط اینا برای اینا اصلا به روز بودن واقعا واجه مناسبی نیست اینا چند روزم جلوتر از روزن البته اینو بگم برای فیلم انتخاب کردن و دقت کنید گول اکس روی کاور فیلم رو نخوری اینا ببینید یعنی مورد داشتیم عکس روی جلد فیلم یه خانم خوشیل و لوند و اینا با بیکینی دو تیکه به هر حال بوست فرستادن به سمت خریدار رو اینا بوده بعد آقای محترم برای فیلمو خریدن با هزار امید و آرزوشم جمهوری به هر حال بردن خونه که یه حالی بکنن بعد دیدن کل فیلم فقط یه اد گولاخو گردن کلوف دارن امنیگر میزنن ساتوری میکنن اون خانومه که بیکینی تنش بودم در مجموع فقط یه ثانیه توی کل سکانس اومده رفته خب اینا گولی زن که دیگه یا مورد داشتیم عکس روی جلد یه پسر خشکی خوشگل 6 پک ف چیز مایی خود من خب بعد همون اول فیلم بدبق تصادف میکنه دور از جونم میفته می اینه که خانم آقایون عزیز برای خریدن فیلم اصلا گله عکس کابر فیلمو رو نخورین حتما خودتون قبل چه سری اطلاعات اما مورد فیلم هایی که میخوایم ببینین به دست بیارین این آله بعد تو اینترنت یا از طریق معرفی دوست صرفیقانا اونایی که چار تا فیلم بیشترن من شما دیدم من یه چیزی میدونم که میگم به این درداایی دوچار شدم قبلا اما آم ما اینجا توی ایسکای پنجمه میخوایم از این هفته تجربیات و خاطرات و نقطه نظرات فیلمی خودمون رو با شما در میون بذاریم که با دست پرتر و انتخابای بیشتری فیلم انتخاب کنیم برای دیدن از اونجا که ژانر کومیدی تقریبا برای همه ژانر جذابیه و کمتر کسیه که فیلم کومیدی مثلا دوست نداشته باشه میخوایم از فیلمهای خنددار و کومیدی شروع کنیم امروز و میخوام از شما سوال کنیم. می‌خوام از شما سوال کنیم به ما بگین خنده‌دارترین فیلم کمدی که دیدین چی بوده اصلا خنده‌دارترین فیلمی که دیدین چی بوده اون فیلمایی رو معرفی کنیم که اصلا یعنی نمی‌دونم آقا فکر کن مثلا همه امشب می‌خوایم همه بریم مثلا فیلم کمدی تماشا کنیم یا من میخوام برم فیلم تماشا کنم بهم چه فیلمی پیشنهاد می‌کنین که شب جمعه اونقدر بخندم اونقدر بخندم اونقدر بخندم همسایه از صدای خندم زنگ میزنه پلیس یعنی در این حد می‌خوام ایرانی و خارجی هم فرقی نداره اصلا می‌تونین یه ایرانی بگین یه خارجی پس خنده دارترین فیلمی که دیدین بگین چی بوده یعنی یک فیلم کمدی یا دو تا فیلم کمدی ایرانی خارجی به ما معرفی کنین یه مقداری هم البته اگه تونستی خیلی کوتاه در مورد فیلم میتونین توضیح بدین یا یعنی مثلا بگین ترین سکانسش که دیگه شماها ولو شدین از خنده چی بوده و اینا حالا با توجهی که داریم باشی به فیلم کمدی حرف میزنیم و از خنده با و طنز اینا میخوام بریم سراغ جلا خلا ظرف کمدی و طنزی که میشه باید نظر کارشناسان ام عمو و ادمای این کارا هم بپرسید دیگه سلام آه. علیکم خوب سلام داداش شما خوب هستین خوش اومدین آقا بیشتر آوردیم به, به خدا بیا پیش ما <تصح> راهمون افتاد این بری <تصح> جلال تو خودت سال‌ها طنز می‌نویسی برای رادیو پاس پردا قبلش نمی‌دونم چلچرا تو روزنامه‌ها تو ایران بعدش هم این 6 6 فصل که حال با ما بودی کلاً جلال خب طنزنویسه میخوام ببینم توی که طنزنویسی با مزه‌ترین فیلم <تصح> <تصح> یا سریال یا مثلا برنامه‌ای کمدی که دیدی چی بوده ببین من فیلم معرفی میکنم فرشید ولی ام. قبل از اینکه به فیلم برسیم دلم میخواد یک کاراکتر جذاب معرفی کنم که مالی. الان خوب بکنم خیلی از ایرانی‌ها هم داخل همچه خارج میشناسنش اونم کاراکتر جناب خانه کاراکتری بح بح. که بر برنامه جنابخان. خندوانه معروف شد ولی خب یه هیستوری داره که حالا بعدم نمیاد کم دوبارهش حرف بزنم بعدم یکم درباره تنز خاصی که داره صحبت کنم هیستوری منظورتون تاریخچه تاریخ خیلی ضعیف شما چی ببین بهش ببین محبوبیتش در این حده که من دیدم یه کانال تلگرامی که بیش از یک میلیون نفر عضو داره چی میگن عضو میگن دیگه توی عوض میگن. آره دی عضو میگن این خارجی نبود فارسی آره نظرسنجی کرده بود بین مخاطبینش بین اعضاشش که محبوب ترین عروسکتون چیه مم. مثلا فکر کنید که شما قلاخ قرمزی و نمیدونم فامیل دور و آقای همسایه و اینا رو هم دارید دیگه ولی با این وجود جناب خان اول شده بود تون نظرسنجی بعد کاراکتر جذابیه که خب صداپیشگیشو محمد بهرانی به عهده داره که قبلا آقای همساده و بابایی هم تو قلاخ قرمزی ازش بودیم عروسا گرزاناش مهدی برقه ای و حامد زبیحی البته بس... عروسک گردون داره یعنی یه باله. نفر دستشه یه, یه نفر می‌کنم یکمون آره و یکی و سازنده عروسک هم خانم هدیه هاشمی بوده که البته ساخت عروسک خودشه کمی حاشیه داشتون اولها چون که عروسکش خیلی شبیه عروسکیه به اسم المو که این عروسک آمریکایی که عروسک ۲رزان... خارجی ما 1972 توی یه برنامه پرطرفدار آمریکایی حضور داره برنامه تلویزیونی و توی فیلم سینماییم بوده منتها سازندگان عروسک دفاعشون بوده که نه این این مدل ساخت عروسک یکی بوده درسته قبلا یعنی الان شبیه جناب خان ولی واقعا عکس این علم رو ببینی خیلی شبیه ولی قبلا مثلا در همون اوایل کلا قرمزی ما کاراکتر جودی پولی رو داشتیم توی درسته. که اونم در تیپ شبیه بود فقط که مو داشت و این حرفا و اونم یه دست واقعی داشت درسته و اینجوری از خودم دفاع میکنم <تصفح> اما شکل ش... یعنی نحوه شبگیری شوخی‌های جناب خان به این شکل که خب خیلی از بار تنزش رو دوش خود محمد بحرانیه به, به, به صورت اینی. فل بداهه آره صدا, صدا پیشه دیگه صدا, پیشه. صدا ب... پیشه هست و خودش هم فل بداهه دقیقا ولی همچین تنز محکمی رو آدم واقعا فکر میکنه که یک تیم تنز پرداز و یک تیم ایده پردازی هم حتما پشتش هست و حالا هیستوری خود کارکترم اینه که از سریال پروز قارف سکی قارف بله قارف من نمیتونم <laughs> از سریال عروسکی کوچه مرواری اومده که سریالی بود برای سینمای خانگی برای مم. محصولات خانگی که حالا اون سریال خیلی نگرف و موفق نبود به خاطر مشکلات مختلف ولی این انگار که بازیکن خارجیشون که رفت لیگ برتر مثکه همین به صلاح جناب خان بود دست. اما یه سری ویژگی داره که واقعا به نظر یک اتفاق جدیدی جناب خان تو تنظه تلویزیونی به خصوص اینه که به نظرم خیلی به روزه یعنی مم. ما این مشکل رو به خصوص تو تلویزیون ایران داشتیم که اصلا دوستان توی فضایی دیگه بودن قبل تو تنز برای الان مثلا شما ببینه که وقتی ماجره لباس اولمپیک ماجره لباس اولمپیک و این لباس زشتی که اول قرار بود مثلا دو شب بعدش یناب با یه لباس تو خونه از شلوار اومد گفت من مثلا لباس مورد علاقه ام لباسه اولمپیک المپیک این از نظر من بعد یه ویژگی خیلی مهم و متفاوتش اینه که از موسیقی به خوبی محمد بهرانی استفاده می‌کنه توان عجیب غریبی داره که به زبان‌های مختلف و های مختلف خارجی داخلی نمیدونم چیکار می‌کنه و خودش سازم میزنه یعنی فکر کنم تنبک میزنه و ولی می حتما از سازهای دیگه استفاده می‌کنه گاهی وقتا مثلا اگه می‌خواد به یه زبان خاصی مثلا لوری من میدونم که یعنی شنیدم که میره با یک لور زبان چک میکنه همه چیز با جلوش میخونه میره سات های می اون چیز و واقعاً یعنی چیزی هم که می واقعا درسته بحثم فکر نمیکنه که اون طرف چون محمد برانی خودش شیرازیه درسته. که یه شیرازی داره مثلا لوری یا ترکی یا زبان های مختلف میخونه همچهری خود هم هست یه جورایی <تصفح> ارزم به حضورتون که یک شجاعت عجیب قریبی هم دیده میشه اصلا با جنس تنز تلویزیونی بازم کاملا متفاوته ام. یعنی با یک چیزای تابوشکنی های تو تنز داره که حالا ما میتونیم یکی از،, از این تابوشکنی ها رو پخش کنیم و دوستان بشنم من حتما خیلی شنیدن که مثلا وقتی ماجرای یال سارات پیش اومد و این نشریه سینماگران ایرانی رو با یک لفظ عجیب غریبی که همون بی بی که کیست بره. و عکس های یه از سینما چی بود اومد بهش اکسون اولشون داد جناب خانم به سبک خودش دیگه در اشل تلویزیون دیگه بیشتر از اون دیگه اومد یادمه من دیدم اون یه, رو... یه روزنامه دیواری خودش یه روزنامه بله. اصلاً, اصلا چاپ اصلاً... کرده بود ببین برنامه بود که به مناسبت روز خبرنگار تایید شده بود و همه های برنامه خبرنگار بودن و به همین خاطر این... از این فرصت استفاده کرد و به اونم اشاره کرد و فکر کنم اون اونو آماده داشته باشیم آره بختش بشنو حالا هر دیگه آره تیترا اصلیمون این اصلیه نه بله به نون ن میم بله خر بله بله به خاطر حفظ حریم شخصی افراد ما ترجیح دادیم فقط اول اسمشون رو به کار ببریم آره که لو کیه این اول اسم کامل کامل نیست نه جونت جانت کامل نیست جارتان یاب کامل نه جان تو کامل بهنار یعنی فهمیدی کی ها آره بابا تام بعد خیلی زشته شما اینجوری با آدم حرف میزنی نه نه خود تو مقاله چی نمیشته شاید مقاله علمی باشه تعلیم چطور <تصفيق> ممکن مقاله علمی باشه شما روجبه که... زیست شناسی باشه شما نخونده قضاوت میکنی خون میچینه میشه ما به عنوان یک نشریه رسمی باید مراقب ادب و نزاکت باشی آقای عزیز مو قبلا هم دیدم تو نشریات رسمی همین همچی الفاظی تقریبا استفاده شده حتی شاید یه آره دیدم ویدون این همه اشاره‌ای بود به همین نشیله یا لسترات دیگه آره اشاره لایت بود ولی دیگه داره <تصفح> شبکه‌ نسیم سیما پخش میشه دیگه بیشتر از این واقعا ممنون جلال از اینکه این شخصیت رو اینقدر باز کردی برامون <تصفح> از های مختلف از فیلم‌های ایرانی کمدی <تصفح> معرفی کن برام ببین من فیلمی که خودم خیلی دوست داشتم و همیشه یادم میاد حتی به بعضی از هنوزم می‌خندم فیلم نانو عشق هزار بود که سال 1380 به کارگردانی ابوالحسن داودی ساخته شد و بازگرهای خیلی خوبی هم توش بودن اونم یه جورایی سندت چکم بود اونم سندت چکم بود دیگه. تنز سیاسی بود حالا دوران اصلاحات بود و خب یه فضا باستر بود ولی با این وجود فیلم خیلی جسور بود نویسنده فیلم نماشن پیمان قاسم خانی بود و فیلم دیگه ای که دوست دارم بهش اشاره کنم تو یه کمی تو سایه فیلم های دیگه چیز شد فیلم مکس سامان مقدمه که اونم و جنس شوخیش بازم اونم یه جوری حنجار شکن بود چون با موسیقی آنجلسی یا موسیقی حالا نمی‌دونم یه موسیقی که به اون نام شناخته میشه درسته. شوخی می‌کرد و طنز جابجایی بود یعنی یه کاراکتری اشتباها رفتو بود جای یه کاراکتر دیگه که خیلی یه فرمول شناخته شده طنزه و تو اون ساختار شوخیاری خیلی خوبی کرد و اتفاقا یکی از اون فیلم بود که براش توش یالمه موزیک بود قرار بود اصلا موزیکال بود باشه فیلم که بعد منتهات تو ارشاد به مشکل برخورد و بالاخره موزیکاش کم شد توی سه چهار تا آهنگ خیلی با مزه است که از همون آهنگای سبک به اصطلاح لس آنجلسی هست. بعضی از آهنگای لس آنجلسی و تو ترانه اونا رو هم ابراهیم نبی گفته بود. آخ... یکی از آخرین بردوز کاراش بردوز بله, بله. بله. پرداز سحر صبح که ایرانی که الان خارج از کشور ولی این یکی از آخرین کارهاش بود توی ایران دلست. و من حالا میشناویم فکر کنم یه بخشی از این آه... آ... یکی از این آهنگا ولی من یه کردیتی هم بدم به خودمون به قشر ن... خودمون یعنی نویسنده ها <تصفح> اونم اینی که واقعا تو هر جایی که توی حداقل 10 15 سال اخیر فیلم خوبی در ژانر تنز میشه پای فیلمنامه های پیمان قاسمخانی ردش دیده میشه واقعا آره دلوقتي. تو فیلم تو فیلم اون تو برنامه تلویزیونیش بود که گروه بود تو فیلم نماها معبولا خودش یا حد اکثر یه نفر دیگه و واقعا حیف که دیگه نمی و بیشتر رفته به سمت کارگردانی بازیگری ولی واقعا باید بهش تو هم میخوای کم کم بری به سمت کارگرده من هنوز خودمون پیدا نکردم دارم دنبال خودم میگردم هر پیدا کردیم شاید گم شدم در حال پیدا ممنونم از جلال سعیدی عزیز و بریم یه بخشی از این ترانه یکی از ترانه های همین فیلم مکس رو بشنویم باید خدافزی میکنیم جلال مرسی ندشا ندشا تو یک قلب من نشستی ندشا ندشا قلب من شد پاره پاره پاره پاره پاره, پاره شد عشق من بیچاره آخو بیچاره آخ بیچاره قلب من شد پاره پاره پاره پاره, پاره, پاره شد عشق من بیچاره ندشا ندشا با رقیب من نشستی توی بنز مشکی اون دیدم تو محله سر کوچه تو خیاو بوردی بمن شسی توی بنز مشکی دیدم توی محله سر کی تو خیا بود تو سرم صدای بوغه سر کوچه‌تون شلوغه بوردی تو رو نمیخوام بورو بورو حرفا دروغه بورو دیگه تو رو چتلا مشک هستی ندشا ندشا تو توی یک من نشستی ندشا تو قلب من شد پاره پاره پاره, پاره،, پاره, پاره <تصفيق> شده عشق من چاره ندشا ندشا <تصفيق> این خواننده حالا بازیگر این فیلم این صدای فرهاد آیش بود که شنیدید که جلال معرفی کرد اما خب بریم بعد از جلال سراغ شراگیم زند که خودش تنز نویسه و با نوشته هاش ملتی رو میخندونه و ببینیم نظرش چیه شراگیم هم حال در رادیو پسفرد و فصل آخر با ما بود و خب در ایران وایر می نویسه شراگیم چه فیلمی پیشنهاد میدی تو بهمون به و بامزه ترین فیلمی که خود دیدی چی بوده تا حالا سلام فرشید خوبی؟ سلام قربانه قربانه من متاسفانه چند سالی هست. وقت نکردم خیلی مرتب و منظم فیلم ببینم از این فیلم های جدید که اومده واقعا بیخبرم آخرین فیلمی که خودم دیدم و خیلی دیباش فیلم برات بود بحب. تقریبا ماره 7-8 سال پیش بود اشتباه نکنم فیلم اون زمان من گرفتم با من بشینیم ببینیم وسط فیلم خانومم مجبور شد تلویزیون اصلا خاموش کنه <laughs> چرا صحنه ناجور داشت مگه؟ والا صحنه ناجور که تا دلت بخواد داشت ولی او. علت کردن تلویزیون این نبود این بود که من واقعا داشتم خفه میشدم از خنده <تصفيق> یعنی نفس نمیتونستم بکشم. چی بود؟ خب تعریف کن ما هم بخندیم دیگه والا تعریف کردنه که نیست برشید دو قول معروف میگن شنیدن کی با مانند دیدن آبتا الانم که باز توی ذهنم اون صحنه رو مرور میکنم واقعا فکر می کنم خب اونجوری هم نبود که دیگه من داشتم جلوی تلویزیون پرپر میشدن. ولی واقعا خانومم نجاتم داد که تلویزیون لحظه خاموش کرد. ای بابا. میدونه چون فاکتور قافلگیری که بار اول موقع تماشای فیلم باعث میشه تو بخندی یه چیز دیگه هست. یه یادآوریش لطفی نداره زیاد. خیلی خب حالا بگو یکی شو دیگه کشتی مارو تو هم ای خب حالا میگم عصبانی نشو مثلا یه صحنه داش که براد که بار اول میره به یه هتل مجلل و تمیزی یادم آره بعد همین که میره داخل آسانسور میشه فهم میکنه این اتاقشه چون تا حالا هتل نرفته بوده دیگه فهم میکنه اتاقشه و شروع میکنه چند بدوناشو باز کردن داخل آسانسور و تعریف آه. کردن که مثلا چقدر اتاقش خوبه چقدر تمیزه چقدر دلبازه یعنی توی اون سکاس من پخش زمین شده بودم از خنده البته سکانس های خنده دار زیاد داشت به غیره آره بامزده بودون فیل یه اصلا یه فیلم دیگه بود به اسم دامبن دامبر احمق و احمدتر هزمنش این اسمشو قدیمیتر از براته جیم, جیم کری کرد اونم خیلی خنده دار بود با اونم خیلی خنده دار. ولی شراکی ما با ما گفتیم شما تنز نویسا دیگه به کمتر از وودی و برادران مارکس و رضایت نمیدیم برای دیدن فیلم کومیدی چی جوریه جو جو خب وودی که کارش درسته به خصوص اون های اولش منطقه الان من بیشتر مرد نظرم فیلمایی بوده که من واقعا باش قهقهه زده باشم فیلمای های وودی خب بیشتر دیالوگ مهوره و خب اون انصار قافلگیری رو که لازمه قهقه زدن و آدم منفجر بشه از خنده خب دلست. نداره آدم معمولا با یه سکانسای های که بی نهایت احمقانه باشه یا بی نهایت آفرگیر کننده باشه شروع میکنه قهقه قه قه زدن مثلا تو این پیلمه دامبندامبری که الان گفتم امه. یه سکانس داره که دوسته جیمکری میاد می میچسبونه به میله تلسیجی <تصفيق> که داشتن میرفتن بالا بخواستن اسکی بکنن <تصفيق> و خب هوا سرد بوده زبونش هم اونجا به این میله می چسبه. یعنی <تصفيق> خب تصور کنید صحنه چقدر احمقانه است و خب با همون صحنه واقعا من دلر دل گرفتم از خنده خب در صورت که ات چیز خاصی هم نبوده درسته فیلم ایرانی کمدیپ چی پیشنهاد میکننی؟ حالا تو فیلم های ایرانی من با فیلم مارمولک خیلی خنددن خیلی هم. خوب بود ورود آقای ممنوع و یه فیلم دیگه به اون سنت پیترزبورگ اون هم عالی بود بسیار خوب ممنونم چرام از نظرات تا پیشنهادایی که دادی اونایی که این فیلمار رو ندیدن برم ببینن امشب بخندن پخش زمین شند دیگه به قول شراگیم قربانت فرشید مرسی امیدوارم امیدوار. برنامه باعث بشه کلی فیلم های جدید خوب کمدی معرفی بشه و من دوباره شروع کنم به فیلم دیدن امیدوارم. واقعا تنگ شده واسه خندیدن از تا دل ممنونم قربانت. از شراگیم زند قربانت خداحافظ همه میگن ماول منه همه میگن آوشه به منه اوه. همه میگن ماول منه همه میگن آوشه منه اه. هم فوز منه حَمه میگن اون زله ماله میگن مال منه حَمه میگن اوشب ماله میگن هم فوز منه حَمه میگن اون زله چرا انقد ناز میکنی یه پارچه آقا مثل من کو همه دختر آرزو دادن شوهرشون مثل من بود چرا داری از اینجا میری حالا که شده از من دور اگه بمونی پیشم قول میدی دمی شمم که درسور آره برو روی منه مبا خفان در از خود منه از قین مامان منه یعنی بهتر تازه منه برو روی تن منه مبا خفان در از خود منه تین مامان و, و با هر پیشان نگونا نگونا نگونا نگونا این رو هر برو نگونا در نگونا همه میگن منه. همه میگن منه اه! میگن هم فوز منه. همه میگن اون سر منه همه میگن مال منه همه میگن آوشب منه میگن هم همفوز منه همه میگن اون سر منه امیدوارم بارم آقای نجاد دوباره بشه رئیس جمهور چون دفعه اول داشتون هشت سار ریشه جمهوری اسلامی رو داشت خوش میکرد بله خیلی متشکرم لطف کردین از تماستون البته خب به بحث آقای احمدی نجاد در این هفته اخیر هم داغ بود به اعتمال زیاد شنیدید دیگه شما هم که از هفته پیش زمزمه ها و پچ های تو سراخ سنبه های جمهوری اسلامی در گرفته بود مبدید بر اینکه که مقام معظم رهبریشون در یک دیداری که با استاد احمدی نجاد یا همون معجزه سابق سوم داشتن بهش گفته که آقا شما برای انتخابات ریاض, جم... ریاض, جم... ریاض جمهوری سال 96 نیا یا بیخیال شو خب در این زمینه ی عالمه بحث و گپ و اختلاف نظر بین علمای قوم در گرفته بود که آقا گفته نگفت، شل گفته، سفت گفته، چرا به ما نگفته، به زبون خوش گفته، به زبون ناخوش گفته، گوشش رو گرفته، بعد گفته جای دیگه‌اش گرفته، بعد گفت. خلاص این بحثا بود تا اینکه دوشنبه این هفته معظم له خودشون اومدن وسط میدون و این ماجرا رو تایید کردن. اما چه جوری تایید کردن؟ اشون اولش کلی مقدمه چینی کردن و یه قصه ای تو مایه‌ی قصه حسین‌کُر شب‌السری تعریف کردن تا بالاخره ماجرا رسید به اینجا که گفتن یه نفری آقا آمده پیش من. من هم به ملاحظه صلاح حال خود اون شخص و صلاح حال کشور به ایشون گفتم که شما در طلن قضیه شرکت نکنید اما در ادامه ایشون یه کمی از شناخت خودشون از اوضای کشور و آدم‌ها که پوز دادن و یادآور شدن که ما هم اوضای کشور رو خب غالبا بیشتر از اغلب افراد آشنا هستیم با اوضای کشور آدم ها هم به خصوص آدمایی که صدها جلسه با ما نشستن و برخاستن بیشتر و بهتر از دیگران می‌شناسین اما حضرت رهبریشون ظاهراً یادشون رفته که سال 88 که همین آقایی که الان اسمش هم نمیبرن مملکتو به آتیش کشیده بود و خود مؤذن له گفته بود که نظرشون نزدیک‌تره به ایشون یادتونه دیگه بعد اون موقع هر کی اگه میگه واجی داری اشتباه می‌کنی شما این آقا ال جیم بله می‌گرفتن می‌بردنش زندان جوری که بعضی‌هاشون از اون موقع تا همین الان هم تو زندانن دو تا از تا همین الان تو همی اصلا. بعد چی شد که شما یهو الان پی بردی به قابلیت های ایشون در به هم ریختن مملکت و قطبی کردن فضا شاید یه وقت مثلا کسی روتون تاثیر گذاشته ببین نظر خودشون چیه اینی هم که حالا بگن که فلانی تحت تاثیر زید و عمرو و بک رو نه این حرفو یار فضیره. میسن. زيبا امر رو بک رو اینا هم بیشتر اطلاع دارم هم انگیزه بیشتر. آوافرین. با اطلاع، بابا با انگیزه. انگیزه رو ولی راست میگن ها. یعنی اینجوری که ایشون از طریق شورای گبان و سپاه و بسیج و واقعه محارمشون چنبره میزنن رو انتخابات کشور همش از انگیزه شون میاد دیگه. اما معظم له در ادامه چون میدونن این موجزی سابق هزاره سوم حسابی حال دب کردنه آب پاکی رو هم روی دست ایشون میریزه و خیلی رسمی دیگه پشت بلنگو اعلام میکنه به ایشون که یکی بگه فلانی گفته یکی گفته بگه نگفته یکی بگه چرا پشت بلنگو نگفته حالا اینم پشت بلنگو <تصفيق> آخه چه زوقی هم کردن همه دست جمعی بله به خودشون ای جان دیگه الان خداوکیلی کار برای معجزه سخت شده ها یا باید بیاد وسط میدون و که با اصلاح طلبها و اصولگرها به جنگ رسما با معظم له نظام ورده بزن, بزن بزن بشه یا هم که بر اون شوق و اراده ای که برای خدمت به نظام و مردم و زندباد بهار و جهانیان داره غلبه کنه بشینه تو خونه سماقش به که خیلی سخت خداییش حالا ما نمیدونیم اصلا این ماجراها به ماها چه ربطی داره این وسط خب به رادیوی فردا یا رادیوی بی بی سی چه ارتبا داره این قضیه میپردازن بحث میکنن تحلیل میکنن علت چیه چرا گفتن این چیه معنیش والله به خدا ما چرا خودمون رو خاطر این بحثا میکنیم آخه اصلا من کیم اینجا کجاست کی کیو رئیس جمهور کرد کی از در روز خونه نشین شد برای کم کردن روی آقا کی مردمو کاریزکی کرد اینا به چی به ما هیچ ربطی نداره که هیچ اصلا ما خودمون عامل همه اینا هستیم اینجا هم خیلی رسمی پشت بلنگو به قول آقا اعلام میکنیم عامل ماجراهای 88 آقا ما بودیم. اصن من خود من رفتم سانتیفیوجای مراکز اتمی رو بیش فعال کردم. از اون طرفم رفتم شورای امنیت گفتم آقا ما رو تحریم کنید ما که می‌دونیم تحریمای شما کاغذپاره‌ای بیش نیستن تحریم کنید بره دیگه. همه اینا کار ما بود، کار من بود اصلا اصن دو قطبیو بکش بکشیم که تو سال 88 ماجراهای بعدش ایجاد شد اونم کار ما بود. با حال مخاطب و اوضاع کشور به یه آقای انسان توصیه میکنه که آقا شما اگر تو این مقوله وارد شدید این دو قطبی تو کشور ایجاد میشه دو قطبی تو کشور مضر بله ماشالله هزار ماشاءالله چه بصیرتی دارنشون دستشون درد نکنه به خود فقط یه هفت سال دیر فهمیدن این مسئله رو نمیدونم چرا اون موقع یه سری از مردم و خواص مثلا این حرفا رو میزدن ها ولی اون موقع اینا مساق فتنه بود الان شده بصیرت اما این حرفه ایشون یه نکته انحرافی هم داشت که ما رو یاد یه خاطره انداخت اونم یه بحثی بود درباره مبعث شیرین علاقه من به جناب علی که مثلا آقای عاشق عبداله علی اسمتونه من باب مثال علاقمندم میدونم شما اگر واردی این مقوله شدی به ضرر به ضرر کشور هم به شما میگم وارد نشو بله این علاقمندی ایشون ما رو یاد یه علاقمندی معروف دیگه انداخت من به شما علاقمندم ولی نمی از اتهامات بی اساسی که به ملت زده میشم توهین هایی که به یک ملت می شود از اینها من بگذرم بله یادتونه دیگه حالا جالب بود که حضرت معجزه یعنی همین عثمانم خودمون همون فردای روزی که آقای حرفو رو زد یه نامه نوش به و اعلام کرد که حاجی شما از همون روز 9 شهریور که به من گفتی نیا من گفتم چشم دیگه این همه پشت بلغو میگم و این حرفا نداشت که ظاهرا ایشون خودش خبر نداره که دیگه پیش معظمله حناچ رنگ نداره و با توجه به شیطونیایی که قبلا کرده هیچ بعید نیست که آقاشون برای محکمکاری یه سه چهار بار دیگه هم بیاد پشت بلنگو اینا رو بگه والا خلاصه که اینجاست که در یک مقطع تاریخی معظمله و معجزه سابق هزاری سوم به هم میرسن به هم برخورد میکنن از هم رد میشن و ظاهرا همینجوری در حال دور شدن از همدیگه ام هم هستن حال بدی داره ها اوس محمود حال بدی داره حالشو ببین حالشو ببین ببین حالشو ببین عاشق عاشق آقا عاشق معظم لحظ بمیره عاشق تر از من نمیبینی دیگه اشکی برای تو نمیمیره دیگه چی شد که رفتی یا بر نگشتی یا که داشتم عوضم نداشت این اپلیکیشن رو به روز کنه خیلی متشکرم مام گفتیم دیگه فرهاد بابا این اپلیکیشن رو لطفاً آپدیتش کن پنج شنبه کن بس اپلیکیشن شد بریم سراغ ایستگاه تکنولوژی مهدی احمدی مهدی احمدی سلام سلام به تو و سلام به شنونده های رادیو فردا های ایسکای پنجشنبه یه پنجشنبه دیگه شد و باز سر کلمه می‌پیچیم. خوش اومدی به ایسکای پنجشنبه دوم آیا گوگل قرار تویتر رو بخره؟ خیلی سال خوبیه برای اینکه بسیاری از گزارش ها و خبرها به این سمت بود این هفته که تویتر قراره که به فروش برسه چند تا طرف هستی هم داشت که خب شاید مهمترینشون و مروفترینش گوگله. قیمتش چند مزنده چنده. میشه خرید خریدین تویتر اول بهت بگم که این قصه ادغام این شرکت ها یا این خرید فروش ها من یاده یک لطیفه قدیمی میندازه که یک قصابی کنار یک سوپری بود. البته قصابیه شاید مثلا سرنخش بود و جای بهتری داشت اینا درسته؟ اومدن با هم صحبت کردن که یه دونه به قول خودمون در ایران سوپر گوشت بزنن که ترکیبی از هر دو تا سوپرمارکت و گوشت. آره فقط اشکال کار این بود که چون اون سوپری تجربه فروش گوشت نداشت هر وقت یه نفر می اومد ازش میپرسید که مثلا یک کیلو گوشت گوسفندی میخوام با استخون میگفت شیشه خالی آوردی یا نه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> حالا این هم احتمالاً یا میشه گویتر یا مثلا گوگل بخاطر حالا آه... حلالت... <تصفيق> <تصفيق> چقدر درسته اصلا این توی این چیزایی که آمد یک گزارش خیلی خوبی مجله تایم در این بار داده بود که چقدر چون توییتر دفعه اول نیست که حرف فروشش به گوش میرسه از سه سال پیش به این طرف اه. از بیش از سه سال پیش به این طرف ولی همیشه مقاومت کرده همیشه هم یه پایه ثابت خریدش گوگل بوده یک پاش ماکروسافت بوده و الان عجیبترین چیز اینه که آخرین کسی که پیشنهاد داده برای خریدش یعنی گفته که دارم فکر میکنم به خریدش کمپانی معظم والدیسنیر جدی؟ دیزنی میخواد توییتر اون یعنی میخواد توییتر رو بخره دقیقاً بل... قیمت مزنده نگفتی قیمت تو بازار چجوریه توییتر <تصفح> زمانی که در سال 2003 بنا بود که وارد بازار سهام بشه و سهامش رو عرضه کنه ارزشی که روش گذاشته بودن حدود 18 میلیارد دلار بود اوه اوه اوه اوه. بعد این رقم رشد کرد به 26 میلیارد دلار هم رسید در زمانی که فیسبوک وارد بازار سهام شد بس الان همینطوری رفته بالاتر از نه متاسفانه تو این سال ها خیلی ستارش تغییر در واقع افول داشته مه. و الان دوروار 20 میلیارد دلاره داری؟ 20 تا دا نمیدنم بچه ها جیبا رو بول خوردار رو بریزین ببینیم و بخاریم. خب این احتمال میره که اگر که قیمت الان تویتر حدود 20 میلیارد دلاره خب اگه کسی قرار باشه بخارتش به قیمت بیشتری برد باید, دموقع... باید پول بده و هزینه بکنه. هزینه بیشتری باید بکنه. قبل از اینم خیلی این کمپانی‌های بزرگی دیگه ادغام شدن و خریدن و تو اینستاگرام و خود فیسبوک و واتس اپ یه صحبتی آره بود. آره سابقهش می‌دونی خیلی تر در این قرن 21 که الان چند تا سا 16 سال ازش گذشته. خب یکی از اولین اتفاقایی که در آستانه این قرن افتاد این بود که کمپانی تایم و کمپانی وارنر در هم ادغام شدند، یک مجموعه شدند. بعد قول معروف دنیای اینترنت در آن زمان یعنی AOL هم توسط این کمپانی تایم بارنر خریداری شد و ترکیب شدند. در این سال هم که از این اتفاقات زیاد افتاده. مثلا همونطور که گفتی چند سال پیش فیسبوک به قیمت یک میلیارد دلار اینستاگرام رو خرید مهم. یکی دو سال بعد با یه قیمت عجیب قریب به نسبت این قیمت یعنی یه چیزی حدود 19 میلیار دولار واتساب رو خرید اوه. 19 برابر اینستاگرام و برابر. یکی از قیمت های عجیب غریب توی این دنیا است که مایکروسافت لینکدین این رو خرید لینکدین هم که میدونی یه شبکه یه اجتماعیه که بیشتر با هدف در واقع معرفی رزومه کاری و کاریابی برسته. و اینا ایجاد شد یعنی شما اونجا می رفتین خودتون معرفی می کردین که چه تخصصهایی دارین، دنبال چه کاری می کردین، در چه کارهایی تجربه دارین. از به تاریخ می تونند خیلی از شرکت ها و کمپانی های بزرگ بیان شما رو پیدا 20 میلیارد دلار ماکروسافت 26 میلیارد دلار لینکدین رو بره خرید. بله خرید. از این جهت خب الان مکروسافت که یک شرکت تجاری هست، دنبال توییتر هست، گوگل که یک شرکتی است که حالا فعالیت های شبکه های اجتماعی هم داره و خب سرشو بحث مثلا خبررسانی و خبرگیری و این حرفا شاید معقول ترین شرکت یا مناسب ترین شرکت که می‌تونه از توییتر استفاده بکنه یا به رشد توییتر کمک کنه و دیسنی هم که صحبتش شد من میخوندم بیشتر از این جهت حالاق من که تویتر در کنار پلتفرم به اشتراک گذاشتن محتوی محتوی 140 کارکتری اه. اه، یک پلتفرم به اشتراک گذاشتن فیلم هم داره به اسم باین که فیلم های کتا درسته 15 ثانیه آره یا کوتاه تر و من شیدم که دیسنی از این جهت مایل که این رو داشته باشه برای اینکه خب شاید بتونه از ایده هایی که درست. من و شما و کاراکترهای دیگران، و انیمیشن ها و در واقع خلق میکنه استفاده, استفاده کنه میکنه. و خودت استفاده میکنی از توییتر مهدی من از توییتر بیش از در واقع شبکه‌های اجتماعی دیگه استفاده میکنم یه فضایی هست که آدم بتونه خبرها رو دنبال کنه حالا در فضای مختلف ایران رو دنبال کنه خارج از ایران رو دنبال کنه و یه فضایی هست که در واقع یک چی میگن سی جونکی بزنه که اون خبر مورد علاقه من شما میگید بسیار خب مهدی احمدی رو در توییتر دنبال کنید توییترت چه همون مهدی احمدی مهدی احمدی مهدی احمدی پشت هم پشت هم مهدی احمدی رو در توییتر دنبال کنید فرشید منوفی هم خود بنده هم میتونید در توییتر دنبال کنید بر بچه های دیگه هم ازشون اشون میپرسیم اونایی که توییتر هستن میتونید در توییتر دنبالشون بکنید ممنونم از مهدی خب احمدی دیدار به, دیدار به توییتر دیدار به توییتر توییتر میبینمت قربونت <تصفيق> take your pain When you get weak I'll make you strong again When all is lost, I will comfort you yeah. So give me your love سلام خوش اومدی. سالی خوش تیمون تا خوش اومدی. دوستتون دارم. یزدان هستم. دو شخص سوار شیرازیه. ای یزدون دو شخص سوار شیرازیه بود. من همین الان چناختمتون آشنا شدم باهاتون. خیلی متشکرم. خوشحالمون کردین. ممنون از تماس شما. بریم سراغ سعید. میرسیم به بخش معرفی کنسرت های امروز با کنسرت های همین امروز پنج شنبه شروع میکنم ساعت شش و نیم عصر امروز و فردا محسن یگانه توی سالن میلاد نمایشگاه کنسرت داره که قیمت بلیت این برنامه هم از 40 تا هزار تومنه از محسن یگانه همونطور که بیشترتونم میدونید تا امروز آلبوم های سال کبیسه که اولین آلبومش آلبومش بود که به صورت اینترنتی و بدون مجوز هم منتشر شد نف، نفس های اولین آلبوم رسمیش ش خواب حباب EP نگاه من تا الان از مصنه یگانه منتشر شدن اینم اضافه بکنم که مصنه یگانه ترانه سرا و آهنگ ساز هم هست و برای کارهای خودش و خواننده های دیگه ترانه می نویسه و آهنگ هم می سازه خودت می خاید بری خاطرت شی اما دلت می سوز تظاهر میکنی عاشقمی این بازی هر روز ناتوس آدم دمر رفتن همش دلشوره میگیره در روز بگذار این دلشوره ها از خاطرت میمیره ولی دمم سخیست لو قالوارو یت سورو دورم بس بودنی جای تو دل شوره دور من واسه فردای تو بهونی دنسخنی لو غلبره برای شور اوقات باش دورم از تو دنیای تو راحت باش هیچ کس نمیاد جای تو دل شوره دور من واسه فردای تو در زمن دو دوتا کنسرت دیگه هم امشب ساعت هشت برگزار میشه که یکیش برنامه گروه قول و قزل توی سالان رودکیه که قیمت بلیت این برنامه چهل تا شست هزار تومنه و دوم دومی کنسرت حسام و سراج و گروه سور هست که توی تالار اندیشه حوزه هنری برگزار میشه قیمت بلیت این کنسرت هم بین هشتاد بین اوز میخوام چهل تا هشتاد هزار تومانه خوش که من از گلشن یار آمده در چشم مست من نگر از بوی خمار آمده باز آمدم، باز آمدم از پیش آن یار آمدم در من نگم، در من نگم بهر تو غم خور آمدم بهر تو غم خور آمدم بهر تو غم خور آمدم امروز هشتم مهرماه روز بزرگداشت داشت مولویه مرد بزرگی که گاهی وقت آدم با خوندن شعراش سرش سوت میکشه که چطور یه انسان میتونه به این درجه از نبوغ و خلاقیت توی ادبیات برسه نمیدونیم باید از قصه پردازی ها و نکت سنجی های نغزش توی مصنوی معنوی بگیم یا از قزلیات پرشور و آشغانش توی دیوان شمس راستش توی سالهای اخیر مشاجره های خیلی زیادی هم بین کشورهای مختلف صورت گرفته سر مالکیت نام و میراس مولانا اما به نظر ما چیزی که مهمه اینه که آدمهایی مثل مولانا قبل از همه چیز متعلق به بشریتند چون اگه آدمهایی مثل مولانا و میراسشون در طول تاریخ نبودن انسان این روزها دیگه چیز زیادی براش نمیمون تا دلش رو بهش خوش کنه پس با بزرگداشت مقام مولانا و در شادی داشتن چنین گوهر گرانبهایی ما هم هم صدا میشیم با محسن چاوشی و میگیم آمد بهار جانها ای شاخ تر برقصا آمد بهار جانها ای شاخ تر برقصا جوان یوسف آمد مصر و شهر برقصا ای شاه عشق بربر مانند شیر مادر ای شیر جوش در راه جان پدر برقصا آمد بهار جان ها ای شاخ تر برقصا ای شاخ تر برقصا ای شاخ تر برقصا جان پدر برقصا جان پدر برقصا از پا سر بریدی ای پا گز برقصا به رسا ازش خاجدارن در چرخ چوب باران آنجا قواچه باشد ای خوش کمعمل در جام باده آمد با تن گر نیستی گردی سی تو مادر زاخ شاهنر برقصا روز پنجشنبه دوباره شنبهها ها سه تا هفت اصر با ایستگاه پنج نج شنبه ساعت چهاررو. پانزده دقیقه و پنجه سانیه است و ما همچنان امراض شما هستیم با برنامه ایستگاه پنجنبز رادیو فردوت ساعت هفت هم این برنامه زنده و مستقیم ادامه داره اگر خواستید با در تماس باشید دو سف چار بیست و دو یازده بیست و چهار سه و شماره تماس های ماست اگر خواستید برمون کامنت بذارید در صفحه فیسبوک ما میتونید روی آخرین استاتوس و زیر عکسی که گذاشتیم برمون کامنت بذارید میتونید بهمون ایمیل بزنید استگاه پنج ات رادیوفردا.com ایمیل ماست و همطور که در بخش قبل گفتیم اونهایی که اگر نشنیدن تکرار میکنیم که از شما میخواییم بهمون بگید بامزه ترین و خنددار ترین فیلم کمدی که تا حالا دیدین چی بوده پاییز برموزه کافی افسردگی داره دلمردگی داره غم و داره حتی اقل پنشنبه های پاییزی با صدای تو خیلی خوب و خوشحال میشه خیلی دوست دارم میبوسمت قربونش قربونش همام امنونم و چکرم از تماستون بله پاییز خیلی چیزا داره برگریزون داره رنگا رنگه وقت و افسردگی داره و البته بگم آب و آبام کمی تغییر میکنه. یکی از مشکلات ما انسان ها توی آب و هوای نسبتاً پاییزی که الان داریم اینه که حالا چی بپوشیم یعنی الان این مشکل چی بپوشیم فقط مناسب به خانوما یعنی همه اقشار جامعه از مرد و زن و کودک و مسن همه درگیرشن شما توی خیابون که میری این می‌رین روزا رو می‌بینیم اصلا با پالتو و اوبرکوت اومدن باز بازم دارن می‌لرزن بعضی دیگر هم می‌بینی با آسینکوتا و پیرهن نازک اومدن ولشون کنی همینم هم درمیان لغ می‌شن مثلا خلاص اینا رو گفتم تا وارد بحث شیرین آب و هوای مملکت بشیم آقایون خانم‌های بمی بله بم آقایون خانم‌های بمی خوبین خرم‌ها ردیفن همه چی خوبه شما و خدا نکرد گرمیتون نکنه یعنی چی آقا هوا تو 39 درجه بالای صفر پایزی گفتن فهالا آقا کی میخواد خنک بشه هزار شهرتون حتما دو سه ماه دیگه تو زمستون هم دماتون میشه 25 درجه دیگه حتما ما درک می‌کنیم که همین یک ماه پیش مثلا دمای شهرتون 50 درجه بالای صفر بود آدم اصلا ذوب می‌شد آیه وزیر آفتاب میموند ولی الان هم شما ما رو درک کنید که به تموم نشدن تابستون تو شهر... شهرتون حسادت کنیم دیگه حسادت دیگه کانتور نمیندازی که از روی خیرخواهی که حسادت می‌کنیم نمی‌خوام چشمتون بزنیم یهو حالا مثلا تو شهرتون طوفان یخ بیاد که نه اصلا اصلا ما همچین آدمایی نیستیم ولی خداییش شما هموطن بمی شمایی که از بم صدای ما رو میشنوید خودتونو بذاری جای هموطنان گلمون در شهرهای مثل تبریز و ارومیه و اینا دمای هفت درجه سانتیگراد رو هم در بعضی از ساعت دارن تجربه میکنن هفت درجه یخ سرد دیگه خدایش کمه دیگه حالا ما هم بر این که با دوستای آذری زبانمون یه همدردی کرده باشیم الان سوار بر نوت‌های موسیقی سفر میکنیم به همون برا فقط لباس گرمم با خودمون میبریم چون استعداد سرمخوردن تو این هوا خیلی زیاده ها اوه اوه اوه رو اصلا نیستم یعنی اصلا نیست اصرار نفرمایید که مانع کسب است هستن سرمخوردگی رو نیستم یا شاسین آزربایجان Mom در ایستگاه پنچمبه و اون هم ایستگاه ورزش بریم سراغ مهدی رستنپور خیلی داریم خوب بازی میکنیم ده ده یه موقع ای زمین میستم چقدر خوبیم ما تسته نواشید دلبر خدا قوت پهلوان رو رستنپور سلام سلام فرشید عزیز همچنین شنوندگان محترم گربونت برم خیلی خوش اومدی به ایستگاه پنچنبه در پنچنبه های راژیو فردا و بریم سراغ ورزش چی شدیم؟ فوتسال چرا باختیم آقا؟ خیلی خوب بازی کردن واقعا و به همین مرحله که رسیدن خب دور از انتظار بود چون تورنومنت رو خیلی بعد شروع کردن این فکر میکردیم که مثل دوره های قبلی هز میشن و بر میگردن ولی مخصوصا اون نمایش جلوه برزیل که اصلا شاهکار بود بعد بازی عالی جلوه پاراگوه بعد التحاب بازی هم خیلی بالا بود یعنی از ثانیه اول تا ثانیه آخر که مدام نتیجه تغییر میکرد خیلی خوب بودن ولی دیگه جلوه روسیه و روسیه هم فشید تیم برزیل به بود دیگه یعنی از گلرشون گرفته تا هاشون ولی خب حیف شد دیگه نتونستیم بریم فینال ولی با پرتغال باید بازی کنیم برای کیه بازی فکر کنم فردا دیگه فردا با پرتغال بازی داریم اگه ببریم سوم میشیم دیگه سوم میشیم آره بسیار عالی دیگه چه خبر داری برامون از ورزش این, این فوتسال داستان هم داشت دیگه این حیف که اینو نگیم چون مسئله اولا لباساشون که خب خودشون عکساشون رو منتشر کردن دارن لباساشون رو میدوزن خیلی بده برای جام جهانی یه تیمی از ایران میره <تصفيق> بعد به خاطر متاسفانه مسائلی که تو بحث لباس وجود داره بعد قرار دادایی که فدراسیون میبنده و تولید کنند ایی که خودش دوست داره مسائلی که پشت است و بارها هم حتی خود مثلا برنامه 90 نشون داده تا جزیاتش من وقت تیم ملی که مثلا میخواد با برزیل بازی کنه بعد بشینن سوزن بگیرن دستشون وصل پیله بکنن این <تصفيق> خیلی بده واقعا بده حالا به کجا رسیده هم همچنان نا دیگه هیچی حتی مسئله پاداششون هم بود که این این از مسئله لباس هم بدتر باشه من مثلا خاطرم از زمانی که بازیکن‌های کامرون تو جام جهانی بازی دوم گفتن بازی نمیکنیم چون پاداش میمون نمینه و همین مسئله داره الان تو ورزش ایران داره اتفاق میفته علتشم اون چیزی که خبرنگارای ورزشی دارن بهش اشاره میکنن که این از بی‌کفایتی فدراسیونه که قبل از شروع مسابقات باید مشخص کنه که این پاداش شماست شاید یه بازیکنی بگه این کم من نمیرم امه. نمیخوام باشم ولی وقتی تیمو میفرستن اونجا باید وسط مسابقات وزیر باید دستور بده فدراسیون تکذیب کنه بازیکن کن 16 ساعت مونده بود به بازی با پاراگوه روی روی ایستا... رو مثلا مثلا مینویسن به ما چیزی ندادن اینو واقعا فکر میکنم یعنی چی به ما چیزی؟ یعنی هیچ پولی دریافت نکردن. گفتن که فقط 250 دلار بوده 10000 دلار رو تاکید کردن. و اینو واقعا یه مقدار یعنی خیلی ساده بخوایم بگیم بیچلاسیه برای یه تیم ملی، اونم تیمی که عبارت ای... ا... اسم ایران روی اون تیم باشه این برمیگرده متاسفانه باز به همون تصمیمات اشتباه و ناکارآمدی که تو فدراسیون اتفاق میفته. عجب از بهادر مولایی برامون بگو مهدی فاشید خیلی ماجرای غم انگیزه یعنی خب تو ورزش اتفاقات تلخ زیاده ولی برای بهادر اتفاقاتی افتاده که حتی یک کارگردان بالیودی هم نمیتونه همه ی اینا رو توی فیلم کنه و این ماجرای اینه که برای المپیک قرار بود انتخاب بشه رکورداش هم خیلی خوب بود بعد آخرین نفری بود که خط خورد که بعد گفته شد دلایلش این بوده که غیر فنی بوده چون تو انتخابات مازندران به گزینه مورد نظر رئیس فدراسیون رأی نداده. عجب. به خاطر همین خط خورده. حالا شبونه سوار میشه دیگه خود جایی تو اردو نداره، سوار ماشین میشه با خانواده‌اش برگرده شمال مازندرانی و تو را تصادف میکنن عجب. پدر بزرگش فوت میکنه پدرش به شدت آسیب می‌بینه، خودش هنوز یا اتاق عمله یا سی سیوه، یا درگیره با بعد یه مصاحبه میکنه حالا فدراسیون نرفته پیگیری نکرده، مسئله درمان اینو بماند. یه مصاحبه میکنه انتقاد فنی میکنه از فدراسیون. حالا تعلیقش هم کردن یعنی واقعا چی از این بچه میخوان یه وزنوردار خیلی جوان با استعداد و متاسفانه اونم وضعیتش فعلا اینطوریه یه حدودا دو دقیقه فرصت داریم یکی دو دقیقه فرصت داریم نمیدونم راجع به فوتبال باز مطلبی داری برام بگی میخوام به ماجرای بازی ایران و کره جنوبی اشاره کنم که قراره در مسابقات مقدماتی جام جهانی برگزار بشه خیلی حساس بازی به حال همه اینا به کنار مسابقه رو فیفا روز تاسوعا رو براش در نظر گرفته و برنامه ریزی شده است <تصفيق> چون تو اون روزه که تیم‌های ملی میتونن بازیکن‌های خودشون و لژیونرهاشون رو بگیرن لیگشون رو تعطیل کنن میگم فیفا دی در واقع خب درسته بعد حالا ایران از طریق وزارت ورزش اعتراض کرد به نتیجه نرسید بعد از طریق سفارت کره اقدام کرد برای تغییر زمان بازی بعد رئیس فدراسیون فرستادن هندستان با رئیس فیفا مذاکره کنه از اون ور با رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا رایزنی را کنن وزارت خارجه داره پیگیری میکنه یعنی یه همه جانبه ملی ورزشی فرهنگی سیاسی مذهبی برای اینکه یه روز بازی رو جابجا کنن اون چیزی که اینجا میشه گفت اینه که ای کاش برای همین مساله لباس فوتسالیستا برای حل مشکل بسکتبال زنان که محروم شدن از حضور در بازی های بین درست برای مقابله با مدیران ناکارآمد یه 5 درصد از این ازمه اگر اونجا بود ورزش ایران شاید هفته دشتات درصد مشکلاتش به طور کامل حل می شد یا مسئله پروژه های ناتمام ورزشی که تو استانهای مختلف هست درسته بسیار خب ممنونم ازت مهدی رستنپور اولین حضور مهدی رستنپور در ایسکاه ورزش در ایسکاه پنجشنبه با ما بود ممنونم ازت باید خداحافظی میکنیم مهدی عزیز تا هفته آینده پنچنبه مخلصم خداحافظ خداحافظ. Thank For you، کاری بود از دیوید گتا دیجی فرانسوی با همراهی زارا لارسان خاننده سوئدی. خب از اینجا میرسیم به چالش گویندگی و از اینجا به بعد و میسپوریم به همکارای افتخاری این هفته ایسکای پنشنبه به ترتیب پانتیا، ممل، آتی، محمد و سیاوش حتما خیلی هستون دیوید گتا رو میشنسین و آهنگاشو شنیدین دیوید گتا که الان و نه ساله برای اولین بار در سال 1992 بعد از همکاری با یک استوره موسیقی هاوس به اسم رابرت اوونز قطعه Up and Away رو منتشر میکنه که در هر دو اندازه های خودش قطعه موفقی میشه و باعث میشه دیوید گتا شناخته بشه. میگن دیوید گتا توی کارش وسواس زیادی داره یعنی تا کار خیلی خوبی براش پیش نیاد ترجیح میده کار نکنه. تا می خاطر از سال 94 تا سال 2001 کاری منتشر نکرد تا اینکه سال 2001 جاست الیتر مورلاف یا فقط یکم عشق بیشتر رو با یک خواننده آمریکایی به اسم کریس ویلیز منتشر میکنه که در طی دو سال بعدش کم و بیش قطعه موثقی میشه And one day soon we'll live in harmony Just a little more love, just a little more peace Is all it takes to live the dream Walk hand in hand, got to understand And one day soon we'll live in harmony Just a little. The. Mm -hmm. از آهنگ هیرو ساخته ای معروف یعنی دیوید بویی رو به صورت غیر رسمی پخش میکنه آقای دیوید بویی کودابیا مورس کارو که میشنبه خوشش میاد و چرا سبز رو میده تا این ریمکس به شکل رسمی منتشر بشه اینجوری میشه که دیوید گتا اولین قدم بزرگش برای معروفتر شدن رو بر میداده گتا اسم آهنگ رو عوض میکنه و به اسم جاست for one دی این کار رو بیرون میده. <تصفيق> و نقطه عطف کار حرفه‌ای گتا سال 2010 در 52مین جزی دوره جوایز گرمی اتفاق می‌افته. دیوید گتا توی 5 زمینه کاندیدای جایزه میشه که سه تا از اونا برای قطعه معروف آیگات فیلینگ کار گروه بلک آی پیزه که شاید خیلیاتون شنیده باشید.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 آلبوم سال 2011 به اسم Nothing But The Beat با سپرستار هایی مثل ایکان، لیل وین، آشر، فلوریدا و کریس براون هم کاری کرده و اونطوری که میگن تو نوشتن ترانه ها هم از گروه راک کولد پلی الهام گرفته تو سال 2014 آلبوم ششمش به اسم لیسن رو منتشر میکنه و شاید از اونجایی که به طور غیررسمی خودش رو توی جایگاه پدرخاندگی سبک جدید EDM یا الکترونیک یا Dance Music میبینه تو این آلبوم سعی میکنه تجربه های تازه ای بکنه و این آلبوم رو با علمان های هیپاپ، آلترنتیو راک، آر ان بی و سازهای آکستیک میسازه در طول فعالیت هرفیش گتا با هنرمنده و سوپر های زیادی مثل ریانا، لیدی گاگا، بریدنی پیرز، جنیفر هاتسن، نیکی میناج و آفرو جک همکاری میکنه این کار یعنی هی hey ماما کار مشترکی از دیوید گتا با نیکی میناج و آفرو جک. whatever that you tell me when you're ready yes i'll be a girl forever you let it you ain't never gotta work i'm down for you baby uh, best believe that when you need that i'll provide that you will always have it i'll be on deck keep it in check when you need that i'ma let you have it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 Your came the truth, my screams is the proof, some other dudes get the deuce, so I speed in the coupe, leaving this interview, it ain't nothing new, I've been f**king with you, none of taking you, just tell them to make a you, huh, that's how it be, I come first like they huh. So baby when you need that, give me the word, I'm no good, I'll be bad for my baby. So, uh, make sure that he's getting his share, uh, make sure that his baby take care. Uh, Make sure I'm on my toes, on my knees, keep them pleased, rub them down, be a lady and a freak, oh. Make them a drummer. آخرین آلبوم دیوید به اسم لیسن در سال 2015 دوباره و این بار به اسم لیسن منتشر شد. با این تفاوت که تو آلبوم جدید چند آهنگ سینگل مثل clap your hands, bang my head و blast off به آهنگ های آلبوم قبلی اضافه شد. و چه صداهایی ممنون از پانته آتی، ممل، سیاوش و محمد و البته باقی دوستانی که صدا بر ما فرست بودن یه خورده باید صدا رو ول بدین آقا صدا رو محکم بعضی اینجوری زمزمه بده دیگه تا خب ما هیچی نمیشنویم که صدا رو ول بده محکم قوی و دیگه بعدش خود تمرین کنی گفتم اون تمرین ها هفته پیش کلی تمرینای صدا صدا سازی و صداتون درست کنی گرم کنی یادتون دادم برای اونایی که برای ما ایمیل خالی فرستادن به زودی متن برنامه ی هفته آینده فرستاده میشه برای اینکه در چالش گویندگی ما شرکت کنید و رو در همین برنامه بشنوید سلام فرشید میخواستم دارتو با این هواپیمایی که توی ایران به هم برخورد از نزدارم منم یکی از مسافرهای اون پرواز بدم که از تهران می به لندن خلاص هیچی دیگه این هواپیما داشت دنده عقب می آسمان هم داشت دنده عقب که دو زنن به هم دیگه ولی خب خدایش ما خیلی شانس آوردیم حالا بگذریم ای از این دوتا اومدیم توی هواپیما به ما گفتن آقا جوجه کباب میخوام بدن جوجه کباب چه جوجه کبابی خدا روز بعد نمینه از دست هواپیمایی که تصادف میخواست بکنه جون سالم بدن بردیم ما هایی جوجه کب کاف. جوجه کبش مثل سنگ بود گفتیم خدایا از اون جون سالم بدنیم حالا میخوان ما رو به قضاشون بکشن خلاص. یه ذری که ما همیدیلتر هاپی ما یک تکونایی داد گفتم بعد مثل که قضلر رو بخونیم ولی به هر لحاظ ما سالم رسیدیم و میخواستم بگم خدا رو شکر خدا رو شکر چه پروازی بود چه پروازی واقعا همش ناراحت کنند و دل هو را آورد حمید هستم از لندن قربانت خداپست ممنونم همیت جان از لندن تشکر میکنم که از این تصادف برام گزارش فرستادی خیلی بامزه بود که بعد از این تصادف یکی از مسئولین مربوطه گفته بود این حادثه نه سانحه بود نه حادثه خب چی بود اخوی حادثه بود سائقه بود صادسه بود خب حادثه است دیگه این مرغی که به مردم دادین تو عوابه ما چی بود این دیگه حتما اصل جنس بوده بعد الان مردم چی کار کنن خوشحال باشن که این اتفاق نه حادثه بود نه سانحه جشن ملی برگزار کنیم دور افتخار بزنیم آتش تو چشمون جمع ما روشن کنید تو رو خدا یعنی خوشحالیم که توی مملکت ما یه میفته از تو ادبیات فارسی برایش معادلی نیست باید بگیم اون اتفاقه اشاره کنیم بهش من چی بگم والا؟ اینم از اسنادطای نظامی که باید پشت بلنگو به اشاره بشه این خیلی مهمه ها والا با این اتفاقشون اما یکی از خبرهایی که تو هفته گذشته خیلی سرسدا کرد این بود که اعلام کردن بانک های ایرانی میخوان به مردم کارت اعتباری بدن حال کارت اعتباری چیه؟ کارتی که تو شما از اعتبار بانکیت خرج میکنین از حساب بانکیت اعتبار این کارت هم ظاهرن از 10 میلیون هست تا 5 میلیون تومان. یعنی برونزش 10 میلیون تومان اعتبار داره، نقرهش سی میلیون، تلایی هم میلیون. ولی نکته که خیلی رو اول خوشحال کرد و بعد بعد حال این بود که بعضی ها فکر کرده بودن آخ جون حالا دیگه ما هم مسترکارت و ویزاکارت داریم دیگه میتونیم بریم خرید خارجی بکنیم و اینا مثلا امرونا توی توییترش تویت کرده بود که کارت اعتباری اومد ایران فردا آیفون میخرم پس دادنش رو هم خدا کریمه در حالی که اصلا از این خبران نیست و از این کارتا فقط تو ایران میشه استفاده کرد کامفچ سابق حالا با وجود اینکه بانک ملی اعلام کرده بود تو سه روز اول 20 هزار تا دا درخواست دریافت کارت اعتباری از مشتریاش دریافت کرده اما مسئله اینه که ظاهراً گرفتن این کارتا کار هر کسی نیست مثلا مینا توی توییترش نوشته بود رفتم بانک ملی و شرایط کارت اعتباری رو پرسیدم گفتن یه کارمند دولت باید ضامنتون بشه و از محل کارتونم مدارک لازم رو بیارین با وام فرقی نداره این توییت مینا بود. حالا تازه میگن برای هر ده میلیون تومان اعتبار یه ضامن کارمند دولت هم میخواد یعنی شما اگه بخوای کارت اعتباری 5 میلیونی بگیری، بعد 5 تا ضامن بیاری، آگهیشونو بدی دست بانک تا پولا برنگردونی، آگه اونا رو بگیرن. نکته جالب دیگه اینه که اسم این کارت‌ها هم گذاشتن مرابهه والا مرابحه اسم یه عقد بانکداری اسلامی یا یه جور روش خرید و فروش اسلامی منتها انقدر اسمش عجیبه که مثلا حمید در این باره توییت کرده بود اسم کارت مرابحه طوری آدم حس میکنه بعد از استفاده ازش به جور رابطه نامشروع میگیره شلاقش میزنه یا سینیور زامبی نوشته بود این کارت اعتباری مرابحه به جای اینکه حس امنیت و آرامش بده آدمو یاد محاربه میندازه با این اسمش خلاصه کارتی که اسمش مرابه هست برای هر ده میلیونش یه دونه زامن خفن میخواد تا برای استفاده ازش 18 درصدم هم باید سود بدین تنها کاربوردی که داره اینه که مردم برن باش بیشتر خرید بکنن اقتصاد مملکت از روکودی که الان توش هست در بیاد منطقه حالا اونایی که رفتن این کارتر گرفتن بعدا بیاین بگین به ما زنگ بزنین تماس بگی بگین چی بود کی بود چه شکلی بود چی کارش کردین وقتی هم میگین لطفا خواهشن همینجوری نگین مثل مقام معظم رهبریشون بیاین پشت بلنگو بگین همینجا همه بشنون خیلی متشکرم آرش حسنینا چقدر بحاله چقدر خوب و خوش و خندون تو مجله اقتصادیش خیلی خوشک و منذبته ولی با تو ما چی خودمونی بود چه به گوه خندی را انداخته بود حال کردم حسنشون هم همینجوری بود فکر نمی کردم آرش حسنینام اینقدر بال باشه دستتون در نخونه بازم بیا یا آرش سلام چطوری؟ سلام من آرش حسنینا آرش حسنینا تو زور <تصفيق> <تصفيق> اش <حسنینو رو> <تصفيق> <آلحشو. تصفيق> خیلی خوب بود خیلی بود ببین ملت چقدر حال بعد تو دبی. دبی. آقا 5 بشه آقا آقا, آقا جب... هر کی بذارید آره باش بفرمایید بابا تو این پاسخه دو... یه زیر پله به ما داده اونم میگه پنج دقیقه بیا هفت دقیقه بروم دو نفش دادیم بهت ببین تماس رو ببین بلتو. دلشون آرش حسنی میخواد من میخوام برم بیرون تو اصلا بیا باش نم... اصلا تو هفت برو نوش متصور خیانتی میمیشه خیانت چه خبر؟ همه خبره دیدارم آره تو که راجع به این کارتهای اعتباری افتی زدی مم. معمولا همین جوریه مثلا یه چیز خوبی توی حالا تو سطح سیاست گذاری مثلا بانک مرکزی طراحی میکنه اما در عمل که میاد توی شعبه بانک و اینا این اتفاقایی که چرنده ها نوشته بودن و بهش اشاره کردی میفته درسته در حالی که مثلا اون روزی که معرفیش کردن این کارت ها رو اصلا از این حرفو زده نشد یعنی مثل مثلا بانکداری همینجا که شما کسایی که حساب... که کسا حساب دارن قرار بر این بوده حالا اونجوری که مسئولای بانک مرکزی گفتن قرار برای این بود که کسی که حساب داره حسابش ارزیابی بشه که چقدر اعتبار داره چجوری جوری کار کرده حسابش بدهکار هست نیست رو سر وقت داده چقدر اصلا گردش مالی داره یکی از این کارتای طلا برونز نقره رو بهش بدن درست. خب الان تغییر شده به یه چیز دیگه اونجوری که آره یه موزلی شده حالا بعد ببینیم یه خورده بعد ببینیم چی میشه دقیقاً اول ببینیم چی میشه دیگه آقا خونه چن آفرین <تصفيق> این اصلا یه عادت ایرانیه نمیدونم خارجی هم شاید باشم ما خبر نداریم اما اصلا شما چه خونه داشته باشی چه نداشته باشی چه پول خونه خریدن داشته باشی چه, چه نداشته, نداشته باشی حال میکنی ببینی که قیمت رفت بلا یا پایین حالا منطقه آره. فلان مثلا چند بالا آه. شهر پاییش الان بشین بگم <تصفيق> بگو <تصفيق> تو شهری ورما بانک مرکزی ماه به ماه یه گزارشی میده از تحولات بازار مسکن که این رو هم از سامانه سبت معاملات املاک و مسقلات کشور میگیره متوسط یک متر مربع آپارتمان مسکونی تو شهر تهران توی شهری ورما بوده چهار میلیونو 180000 هزار متوسط 4270000 تومان 4 و هفتاد هزار متوسط در کل تهران کل تهران حالا گران جا کجا بوده گران ترین اینجا منطقه یک بوده با بازم متوسط دارم کجا میشه منطقه یک حدودا میشه میشه تجریش و بالا ما اونجا گوشمون میگیره اونجا زیاده مثل رفتن برای آره اونجا متوسط قیمت توی گلون‌ترین منطقه تهران که منطقه یک بوده بوده 8 میلیون و 920 هزار تومان شما بگون 9 میلیون دیگه سر راستش کنین اونم تازه متوسطه یعنی آره. ممکنه اینجا 15 میلیون باشه یه جا پایین‌تر یا مثلا بسه. یه برج خاصی تو طبقه بله، الش و بلش و اینا آره ارزان‌ترین منطقه کجا بوده کجا؟ منطقه 18 بوده مهم. که متر مربعی متوسطش باز 2 میلیون و 140 هزار تومان بوده درسته آره. کجا میشه منطقه منطقه هیچ دفعی کنم یافت بشه آره بعد حالا اگه بخوایم مثلا مقایسه بکنیم با شهریور پارسال و اینها میتونه یعنی تو این گزارش اومده که هر متر مربع قیمت واحد مسکونی معامله شده توی تهران تو شهریور نوود نسبت به شهریور 94 چهار پارسال دو مومعیز سه دمامه درصد افزایش داشته الان آماری که دادی مال امسال بود یا برای امسال براه آره. این دارم موقع ساش رو میدنم با بر با پارسال, با پارسال. آه، اوکی. دو سه دمامه درصد افزایش داشته که اگه خب تورم هم واقعا ازش کم بکنی در واقع قیمت واقعی خونه با توجه به نرخ تورم حالا 8 در نظر بگیریم 6 درصدی هم کاهش پیدا کرده درسته. قیمت واقعی شا حالا البته رو کاغذ دو سه افسایش داشتم حالا این که الان چه جوری الان من میگن که مثلا قیمت خونه راکده آره دیگه همین الان می مثلا تو همین گزاره 2.3 درصد خیلی قیم... مبلغ پا... یعنی درصد پایینیه تازه اگه شما همون تورم 89 درصدی یا 10 درصدی رو هم در نظر بگیری قیمت خونه واقعی ش اومده پایین یعنی ارزش خونه اومده پایین پار قیمت پارسال تو امسال قیمت تو پایین‌تر قیمت واقعی درسته. یعنی منهای تورم بکنی این چیه این که واقعی ببین یعنی این که خیلی من نمیفهمم مثلا یه کالایی مثل همین مسکنی که الان صحبت کردیم هم. متر مربعی دو, دو درصد گفتیم رفته بالا خب درست اما تو همین سال ما یه تورم ما ده درصدی هم داشتیم ده درسته. منهای های سه چیزی تو حدود هفت و هفت در واقع کاهش هم پیدا کرد این اون قیمت واقعی هست آه، آه. حالا درستان. کدوم منطقه ها همچین بازار داختر بوده منطقه پنج الان چند سالی هست که منطقه نوسازی هم هستش و کجا میشه؟ سمتای و آزادی و غرب تهران میشه اوکی. اون یکی دو دوتا منطقهی که تو پونک و سردار جنگلون, سردار جنگلون و پنجلون چون اونجا هم همچی روی دار داره نوسازی آره، میشه به تنهایی 16 درصد از کل داد و ستت های شهریور برای منطقه پنج بود 16 درصد و... کل تهران آره کل تهران تریفروش در تهران دقیقا بعدش منطقه چهار و دو و چارده بوده که چون محل ما 14 بوده اینو حتما آوردم که ملت بدونم اونجا ق رونق داره و خلاص خیلی آره, <تصفيق> آره،, آره، محله آره، آرش آره، حسنینا حسنینا <تصفيق> منطقه 4 حالا من شیش ماهرم اگر بخوای میتونم یه آماریم بدم که مثلا تو نیمه این خس امسال قیمت یه متر مربع آپارتمان مسکونی تو تهران بوده چهار میلیون و 180 هزار تومان <تصفيق> که نسبت به پارسال نیمه نخست پارسال 3.7 تقریبا 4 درصد افزایش داشته بعد راجب وامام میتونی کوتاه آره الان... قبل از اینکه وام رو بگم بگم که چند سالی هست که رکود توی بازار مسکن خیلی به چشم میاد یعنی مردم نه میخرن نه تعداد فروش ها و اینا خیلی کمه یکی از در درواقع های دولت هم این بوده که بتونه رونق و به این بازار برگردونه دلیلش هم واضح 500 تا 500 تا صنعت مرتبط با ساختمونن که وقتی بخش, بخش مسکن ساختمون به راه میفته <تصفيق> اون 500 تا صنعت رو با خودش میکشونه میتونید مثلا توی یه ساختمون ببینید یه سیم و کابل و نمیدونم لوستر و کلید برق و لوله و آب و زانویی و اینا همه درگیر این ماجرا از این بابت یه نکته مهمی که این گزارش داشت تعداد رشد معاملات مسکن بود تو شش ماه امسال نیمه این امسال نسبت به مدت مشابه پارسالش حدود پونزه درصد تعداد معاملات رشد پیدا کرده اما برای این داستان گفت وام ها که گفتیم وام وام که مرکزی چند وقتی که خیلی تلاش داری میکنه یه محصولاتی هم معرفی میکنه که مثلا اون وام خونه اولیا بود که معرفی کرد اه. اما که 180 میلیون البته خب داستانهایی داره اون مثلا باید شما یه سال سپرده گذاری بکنی و اینا چیه اونایی که دفعه اول میخوان خوام وام برای خونه, خونه اول اولی خونه بگیرن. 180 میلیون آره یک س... تو تهران درست یک سال باید سپرده گذاری بکنن اما موضوع اینه که مثلا این یک ساله خب هر کسی نمیتونه درست بعد با این قیمتایی که ما گفتیم حالا مثلا شما ببین دیگه چقدر چه, چه سهمی از پول یه خونه میشه معمولا این تحصیلات بانکی وامای بانکی که حالا یه خودم بهتر و چرپتر شده توی شهرهای مثلا به غیر از تهران شهرهای بزرگ عبر شهرها جواب میده اونجا با اینکه عددش هم کچیکتره اما معمولا تو تهران واقعا اون قدرت خیده درست نمیکنه برای مردم که بتونن مسکن بخره آقا چند؟ آقا یینو هم یادات نره بگی من خیلی مشکل مو میگیره یینو بعد از ته بیارم میام چون ظاهرا تو با این ژاپنی‌ها مثل... مراوداتی داری <تصفح> هر سری یینو واسه میپرسی آقا این هفته‌ای که گذشت نسبت به هفته قبلی که ما اومدیم و اسکای اول ما بودش توی این برنامه شما قیمت قیمت تو بازار ارز بالا رفته <تصفح> مثلا توی هفتهی که تو هفته‌ای که بودیم پایین ترین قیمت دلار 3572 من بود که شنبه اول هفته رقم خورد سه شنبه گرونترین روز هفته بود هم برای دلار هم برای یورو قیمت دلار تو سه شنبه به 3598 تومان تقریبا 3600 و... اه... رسید آره رسیدش بعد این کاناله که پا... کف و سقف و بهش میگیم کانال توسته. این کانال خیلی بزرگ شده شده 26 تومان هفته, هفته پیش 8 تومان بود 8 تومان بود یعنی نوسان آره، کوچیکی داشت پارسال میگم پا چی شد هستم هفته, هفته پیش 3562 تومن بود کف قیمت دلار این هفته شد 3572 تومن 10 آره، تومن هفته بوله یورو اما اوزاش حالا بهتر یا بدتر بود برای اونایی که میخواستن یورو بخارم بدتر بود برای اونایی که میخواستن بفروشم بهتر کانالش شد 44 تومن کف و سخف کافش 4012 تومان بود سقفش 4056 تومان او کشیده بالا کلا دلار رو یورو آره، از هفته پیش کلا یورو هفته دومن. پیش بود 409 تومان حد اکثرش این هفته شو 4056 تومان او بسیار خوب. ممنون و متشکرم از آرش حسنینا آرش هاشم نیا آرش الان چه خبر بشه همین آرش حسینی رفیقم زنگ میزنه یه چیزی رو به من بگو مردم مخاطبین میخوام با شما در ارتباط باشند، با کجا باید در ارتباط بشن اه... از چه طریق چی, چی چی طریق, طریق دو تا دو تا برنامه‌ای که دارم آدرس های ایمیلای اونها هست یکیش همین پادکست الف به که آه. آدرسش آدرسش آسون‌تر الف@رادیوفردا.com نماگرم هست که همین نماگر عل... نماگر@رادیوفردا.com که او مجله اقتصادی اما بهتون قول میدم هفته بعد یه توییتری آره یه چیزی با یه سوشال چیزی مدیو با فضای آره مجازی همیقدار آشتی کن آره بعدش هم من قدم، بر اخلاق <تصفيق> نیستم تو برنامه ها به خدا <تصفيق> ممنونم تو رو دوست دارم ولی پول و بیشتر تورو دوست دارم برای پول بیشتر تورو دوست دارم برای پول بیشتر مشروب نمی خورم ولی از همه من سرم میگه معجزه است یا اینکه من دارم حقیقتا اینه که با نگاه دستگرم منو به بالا از زمین چرس دارم قبلا نبودند و مال پول فرغش ولی اون اجق پولمه و ها سر به پول خرج کنم بمیده آرامش چه تریه بعد از سف سالادش تو مثل او درجا هی منامیکن چشته ولی هاجودانه میشیم اینه که bad میگم تو to your fikra maze we just go up آنون ساختن که من بهش گنهان جزی تفینی سوی کشورم مووری مت مکسوم می برم اطران عین تاکسی دور میزنمحلیشه گشت اارشاه بداد تا کاغ از مثل مشل انشاام می روش شک که بو سر تو معنی ارزش داره تا وقتیخته که با منی میشیشه ماشین پایین حس پرواززاری میره سوپررمنی باها روی زمین ولی سر تو ابرارا چ شد خطری تر از چشم به جادو کردی ابرا که دبرا پس بهت میگم تو فکرم just so a boy we got it with best nigga me it's my to your think بیشتر but just so a boy درگیر got میگم with best و وزم مثل اسکولا ببینم که گولم زد هر روز خواستاش بیشتر میشه یه روز ساده یه روز میشه مونم بیشه میگه منو بگی بمونم کلم بیشه هههه هل میدم مونم بیشه الان خوب و شاکی فردا یه ما میگه دست از سرم بردا مثل همین شما همه مردا بگو فازه چیه قاطی داری هر بار خانم ریلکس تم پشت بلند داشته باشین ما رو در ایستگاه پنجشنبه <تصفيق> گفتم از این سلام خوشحالم که دوباره برگشتید فقط یه نکته خیلی مهم چطوری برنامه‌تون رو رو گوشی گوش کنیم رو گوشی خب از طریق وبسایت رادیو فرداری گوشیتون میتونید گوش کنید و همینطور از طریق کانال تلگرام نصرتاً شما رو به خدا بگوییدین این چه وضعشه بعدش شما برگشتین حالا برای شنیدن صدای ما بعد کلی شکنجه بکشیم چرا شکنجه بکشیم بابا این همه راههای مختلف از برای شنیدن دیگه داور گفته فرجی سلام داداش دلمون دوست جناب سرحنگم تنگ شده یه بار لااقل بیارش تو برنامه شادمون کن چش میاریم ان شاءالله به بالاخره میانین حالا یالا به مناسبتی بلاخره. رفته این این جناب سرهنگ الان تو خیابونا است کار داره الان دیگه دیگه دیگه دیگه از بوزودن پریچرت تو فیسبوک گفته ساعت سه که وقت استراحت کی میشونه رادیو گوش بده ای شیرازی باشی که عمرن من شرمندم دیگه ایشون دوگه چون شیرازیه فل ناراحت شد بهش برف خورده من شهرمندم شهرام جان من من مژده میکنم بعد دیگه علی از تهران ایمیل داده گفته لطفا در برنامه جدید ایسکا پنج شنبه به حضرت آیات الله العظما اندل مؤمنین مدظله العالیه که ایسکا معنویت اختصاص تایی تو تا عطر معنویات در برنامه بخش شود چشم آقا به زودی آر میشه ایسکا معنویت هم به هر حال پیشنهاد خوبی ها آره حالا ببینیم چی میشه مرسی بچه ها که برگشتید خیلی خوشحالم که صدای تک تکتون رو دوباره میشنوم. در مورد پنجشن به هم با بگم که خیلی دوستم مدل پنجشن با ایرانی باشم ولی متاسفانه باید برم سر کار و هیچ تفریح خاصی بر پنجشن بعد از ظهرمون نداریم کار, کار کار مرسی مرسی از شما ممنونم از شما اونایی که برای سر کارن ما شرمنده ایم دیگه حالا سر کارم میتونید توی گوشی موبایل یه جووری گوش کنیم مارو. تلفن های تماس ما دو 420, 22, 11, 24, 133, 163 هست در فیسبوک میتونید برمون کامنت بذارید پنج شنبه ایمیل ما ایستگاه فردا اما چند روز پیش یه مناظره یه داغ انتخاباتی بین هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ برگزار شد که حواشی جالبی داشت. البته میدونم خیلی از شما اسم مناظره که میاد اصلا کهیر میزنید یاده یه سری از خاطره ها و ماجراها میافتیم که هنوزم بعد از 7 8 سال داغش تازه است. ولی خب این مناظره فرق داشت. کلا هیچ کی مثل اوس معمود ماکه جدیدا هم ممنول انتخابات شده نمیتونه مناظره کنه. البته توی این مناظره جاهایی به ذهن ترامپ خطور کرد که بدون رعایت کپی رایت بگم بگم را بندازه پای روابط غیر اخلاقی شوهر هیلاری کلینتون رو در زمان ریاست جمهوریش وسط بکشه ولی اونجوری که خودش بعد از مناظره به خبرنگارا گفته بود چون متوجه شده دختر هیلاری کلینتون هم بین مدوین نشسته بوده و فکر کرده جلوی بچه زشت آدم از انحراف اخلاقی بابا حرف بزنه دیگه منصرف شده توی این زمینه مقدار ملاحظه کارانه تر از عثمانم بود مظهر زاهر شد ظاهر های ترامپ اما سوای این مسئله توی مناظره دو طرف حسابی از خجالت هم تو زمین های مختلف در اومدن یکی از موضوعات داغ این مناظره بحث توافق هستهی با ایران بود کلا این توافق هستهی 12-13 سال خودش طول کشید اتمالای 40 سال هم هواشیش قرار طول بکشه ترامپ که از اول مخالف سفت و سخت برجام و توافق هسته‌ای بود میگفت ایران به خاطر تحریم‌ها داشت تسلیم می‌شد و فلج شده بود و از روی ویلچر نشسته بود و اینا ولی بعد از توافق هسته‌ای شفا گرفت و از روی ویلچر بلند شد داره پشتک بازی می‌زنه برای خودش و تو چند وقت دیگه ان میشه ابرقدرت منطقه یعنی اگه ای تو این مناظره آقا شریعتی مداری و بر بچه بچه‌های دلواپسان به عنوان تماشاگر حضور داشتن احتمالاً وقتی ترامپ داشت از قدرت ایران و ضعف غرب توی مذاکرات صحبت می‌کرد بلند می‌شدن شروع می‌کردن هو کردن و چه سر و صدا که بابا این حرفا چیه و سراخیم و اصلا شیشتایی شدیم و غرب زد لوله کرد و به یه بعد خانم کلینتون معمان کسی که حامی مذاکره با ایران بود از دیپلوماسی منجر به توافق هستهی دفاع کرد گفت بدون اینکه که یه دونه ترقی در کنن برنامه هسته ایران متوقف کردن و ایران گذاشتن لای منگنه اینجا یه مناظره انقدر هیلاری قشنگ طرف ایرانی رو زعیف و بیچاره و دست و با بسته تصویر کرد یه باز هم همون داردست شریعت مداری توی سالن مناظره بودن اتمالا یا تکبیر میگفتن یا, یا موج مکسیکی میومدن و میگفتن شیره توی مایه ها الات این مناظره بخشای دیگه هم داشت دو طرف خب کلی زر مزائل دیگه با هم چکوتچونه زدن که خب البته زیاد به ما مربوط نمی شد اونجاش که باز به ما رفع می کرد جایی بود که هیلاری کلینتون برگشت به ترامپ گفت تو اصلا از نظر روحی جوری نیست که بشه اختیار استفاده از هسته هسته‌ای آمریکا رو داد دست تو مثلا زود از کوره در می و این حرفا یعنی خدایی این اینو که گفت یه لحظه عرق سردی نشست روی تن من خدای صحنه مجسم کن خیلی ترسناک دیگه البته ترامپ این جوشی بودن خودش رو تکزیب کرد و گفت که خیلی هم رویاتش خوبه و مطادله و هیچ دشواری نداره با اینا این مناظره که آقایم خانم و آقایم خانم و آقا پسرها تموم شد رفت ولی خواهش ما از مسئولین لشگری و کشوری خودمونینه که یه وقت ترامپ رئیس جمهور آمریکا شد وسوسه نشن نخوان درجه جوش آوردن آقای ترامپ را راستی آزمایی کنن شروع کنن حرکات جانگولری و نمیدونم دستی کشیدن با قایق رو کنار ناب هواپیما بر و ما از همین کارهایی که گاهی اعلام میکنن. شانس که نداریم که یه وقت می‌بینین خانم کلینتون درست گفته بود ایشون واقعا اعصاب نداشت اون وقتی که بعد خر بیاریم و باقالی و هسته‌ای و اینا رو همه رو هم جمع کنیم. بله بیستگاه بین الملل و انتخابات آمریکا و کیوان حسینی سلام سلام بر تو فرشید و همه شنونده‌ای برنامه و خیلی خوشحالم که اینجا خیلی خوب گفتی همه اون چیزهایی که توی مناظره اتفاق افتاد و خلاصه آره فوری خلاصه و خیلی مختصر مفید بود دیگه حالا میخوایم امروز از تو بپرسیم این الکترال کالج که گفتی چیه داستانش که چه بر آمریکا در واقع بر اساس اون آره. برگزار میشه حالا آره اگه از حواشی باز این مناظره چیزی به نظرت میرسه چیزی که ما جو انداخته باشم اول بزن. الکترال کالج رو بگم بعد راحتتر میشه در آره. باره اینکه مناظره به کدوم سمت رفت و کی اتمول داره برنده بشه و کی zarar کرد و کی نکرد هم صحبت بکنیم و این داستان الکترال کالج اینه که سوالی که برای همه به وجود که تو فرانسه تو ایران مردم انتخابات شرکت می‌کنن، رأی‌ها رو را می‌شمارن، هر کسی که بیشتر رأی آورد برنده انتخابات اعلام میشه به همین سادگی. وقتی که جمهوری آمریکا رو داشتن تأسیس میکردن در قرن 18، هم، اون موقع اون نخبگان جمهوری آمریکا شاید فکر کردن که خیلی عجیبه که مردم عادی رای بدن رئیس جمهور انتخاب بشه. فکر کن اون زمانی آه. که تو ایران هنوز قاجاری و سر کار مردم درگیر جنگ‌های بعد از نادرشاه هستند. و اون موقع اینا فکر کردن که خب مردم عادی بیان به یه سری آدم نخبه رای بدن این نخبگان رئیس جمهور رو تعیین بکنن بر اساس جمعیت هر ایالت این نخبگان رو تعیین می‌کنیم که چند نفر باشن که اینا میشن الکترال کالج هر ایالت آ یعنی مردم برن رأی بدن به اون الکترال کالجا و که اون نخبباها اند... کیا باشن که بعد اونا بتونن انتخاب کنن اگر یه ایالتی جمعیتش زیاده تعداد اون نخبباها یا الکترال کالجای ای اون ایالت بیشتر میشه اگه یه ایالتی جمعیتش کم تعدادش کمتر میشه این امتیاز میمونه شما وقتی می‌خوای برنده بشی تو انتخابات آمریکا الان تعدادشون 538 نفره شما باید این الکترال کالجا آره این یادمه. 538 تا تقسیم شدن بین ایالت‌ها بر اساس جمعیت ایالت ها و شما باید تعداد 270 تا را حداقل دقل رو به دست بیاری حالا چطوری میتونی به دست بیاری؟ توی هر ایالتی که برنده بشی اون ایالت انتخاباتش این ایالت انتخابات ایرانه اگر که برنده شدی یک درصد هم رأیت بیشتر بود از رقیبت کل الکترال کالجای اون ایالت میشه مال شما یعنی مثلا اگر ایالت آقا الان ایران میست... ایران مثال بزن الان مثلا تو اسفه کن مثلاً ایران مثلا مثل آمریکا بود آره اگه این... آدم ها می میرفتن به یک سری آدمی که اسمشون الکترال کالج یا والا رأی شما به جن که تو ایران برنده انتخابات بشید بعد تو گیلان خراسان، تهران، سمنان جدا جدا برنده بشید. بعد هر کدوم اگه جمع جمع اینا درصدش بیشتر آره. بود شما برندوشید. بعد مثلا یه جایی مثل خراسان که خراسان شمالی که جمعیتش خراسان فکر می‌کنه برای خراسان رزوی یا اصفهان که جمعیتشون بیشتره مثلا امتیازش می‌شد سی تا بعد مثلا گیلان می‌شد 12 تا تهران میشد هشت تا نه، تهران که خیلی حالا <تصفيق> مثال دیگه آره اینا این امتیاز میمونه دیگه این 538 امتیاز وجود داره تو این بازی شما باید حداقل 270 تاشو به دست بیارید و برای اینکه به دست بیارید باید دونه دونه این انت... ایالت‌ها برنده یعنی عملا کسی که میره رأی بده اسم ترامپ یا کلینتون رو مینیویسه آره ترامپ و کلینتون رو مینیویسه الان دیگه به اون شکل برگزار نمیشه که اسم الکترال کالجا رو بنویسید الان فقط تعدادشو ما میدونیم ولی هم تعداد مهمه واقعا بقیهش هم چندان مهم نیست یعنی ادمهای ایالت فلوریدا میرن رای میدن به ترامپ یا کلینتون درسته و اگر که هر کدومشون بیشتر از 50 درصد آورد هر کدومش بیشترین تعداد رای آورد 29 تا الکترال کالج فلوریدا میشه مال اون 29 امتیاز فلوریدا میره به حساب هر کسی که برنش هر ایالتی یه امتیازی داره برخورده آره بعد مثلا کالیفرنیا 55 تاست چون خیلی ایالت بزرگ و پر جمعیتیه. ایالت نیویورک 29 تاست اینا تعداد بالاست و خب خیلی ایالت ها هست که تعداد کمتری داره اوکلاهوما هفتا داره مثلا کانزاس شش تا داره امه. و شما هر کدوم مینا رو ببرید اون شش تا این هفته این بیناتا میاد توجی به شما و جمعش بد بشه بیشتر از دویست و هفت هر کسی که این هفت تا تا رو بیاره برنده انتخابات میشه یه چیزی بعد از این مناظره یک سری درصدها و اینا هر کدوم از این سایت ها اومدن دادن و درصدای مختلف رو میگن که کلینتون و ترامپ چقدر بالا پایین 60 درصد 40 درصد این این اینا چه جوریه اینا رو چه جوری نظرسنجی می تو تک تک این ایالت ها یه نظرسنجی ملی سازمان های مختلف و مراکز نظرسنجی مختلف انجام میدن و بر اساس اینا میگن دیگه مهم اینه که تو بدونی تو کدوم ایالت میبره اصلا مهم نیست توی کل آمریکا کی, کی داره رأی میده شما بدونی تو کالیفرنیا چند درصد میخوان به کلینتون رأی بدن و پیش بینی می کنند مثلا الان پیش بینی اینه که 99 درصد کلینتون در کالیفرنیا میبره این آه. یعنی چی اوکی یعنی, یعنی می میبره یعنی 55 تای کالیفرنیا رو داره 55 آره تا رو توی حسابش داره یعنی واقعا تقریبا نزدیک به غیر ممکنه که ترامپ کالیفرنیا رو ببره اوکی کالیفرنیا پنج... رو آره. از, بقیه... از اون طرف برعکسش هم هست 96 درصد تکساس رو ترامپ میبره اون چنتا داره تگزاس تگزاس 38 داره, هشت داره. پس این 38 دارم آره اگه تو توی ستاد انتخاباتی کلینتون باشی میگی دیگه برای اینکه دعوا نکنیم دیگه 38 مال ترامپ 55 مال منه این دقیقاً اینه... نیویورک همینطوری 29 تا خب اینا میشن ایالاتای های و الان ما با ایالاتای قرمز و آبی آشنا شدیم یعنی ایالاتایی که سرشون دعوا نیست درسته و اینقدر طرفدار یکی از دو هست توشون زیاده که حتما اون حزب میبره قرمز و آبی که قرمز ترامپ آبی آبی اه... نه پرسپولیس پرس است پرس و... <تصفح> آبی دموکرات <آبی. تصفح> <تصفح> داوسر ایالتای بنفشه ایالاتی که معلوم نیستش که به کدوم سمت خواهد رفت و اونا سرنوشت رو تعیین میکنن توی این انتخابات ایالت فلوریداست <تصفح> که بسیار سرنوشت ساز خواهد بود به کدوم ور بر بره به کی رای بده ایالت پنسیلوانیاست ویرجینیاس این سه تا که هم امتیازاشون بالاست و هم هنوز یعنی یه روز میگن این ور یه روز میگن اون ور این خیلی مهمه آره. بعد این مناظره چه اتفاقی افتاد چقدر الان آمارا چقدر تغییر کرد آره یکی دلوقتش. دو یک میتونم بگم 24 ساعت اول به نفت ترامپ بود یه فضای خیلی کوچولویی درست شد که به نظر میومدش که داره میره به سمت ترامپ و میتونم بگم که مثلا اینطوری چطوری بگم که بتونی بفهمیم اگه مقایسه کنیم با سه هفته پیش مهم. و فرض که انگار یه مسابقه فوتباله تا سه هفته پیش که دقیقه 60 بازی بود، خانم کلینتون سه هیچ جلو بود. الان رسیدیم به دقیقه, دقیقه هشتاد بازی، 3-2 شده. 3-2 یعنی دو تا زده. آره الان همچنان خانم کلینتون جلوه بعد از این مناظره بازم جلوئه. بازم خیلی‌ها پیش‌بینی میکنن که کلینتون ببره. ولی هم. همینطور که گفتم فاصله کم شده. درسته. و 3 و به هر حال هر لحظه احتمال داره که تیم حریف یه گل بزنه. و, و یه چیزی رو کنه دیگه یه اتفاقی, یه اتفاقی بیفته, اتفاقی و بیفته و چند روز مونده چهل و روز مونده چهل و دو سه روز آره آره چهل خورده ای مونده و هر لحظه ممکن چیز... که به هر سمتی بره این انتخابات و باز هم نمیشه با قاطعیت گفتش که خانم کلینتون از آقای ترامب میبرز با اینکه میشه گفت که تا این لحظه کلینتون جلو بوده هنوز جلوه و همچنان بر اساس پیش بینی که سایت محبوب من 538 انجام میده 60 درصدیشون شانسش بیشتره بر اساس نظرسنجی هایی که در تک تک ایالتها انجام شده و حتی حساب کرده که فلوریدا رو ایشون میبازه نوادا رو ایشون میبازه اینا جز ایالتاییه که خیلی چیزه ولی بله خب این سایت فکر میکنه چون پنسیلوانیا و ویرجینیا رو کلینتون میبره پس تعداد الکترال کالجاش از 270 بیش تا بیشتر. بیشتر خواهد شد. خیلی ممنونم کیوان حسینی که انقدر روشن و ساده و شفاف راجع به الکترال کالج و انتخابات آمریکا توضیح دادی از هفته آینده باز هم کیوان حسینی با ما خواهد بود و باز هم راجع به انتخابات آمریکا بیشتر صحبت می‌کنیم کیوان حسینی رو در توییتر فالو کنید توییتر همون کیوان حسینی کیوان حسینی k a y v a n h o s, -S e i -A. آس. آس. آس. آس. آس. کیوان حسینی رو در توییتر فالو کنید مطالب با ارزشی فارسی هم منو سرچ کنید میتونید رو پیدا کنید فارسی کیوانوثینی سرچ کنید داره توی توییتر منو پیدا بکنید سوالات هم از برنامه فرشید بپرسید هر چی در مورد انتخابات آمریکا و الکترال کالج رو ساده توضیح داده باشم فکر کنم فهمیده باشن اگه هر سوالی داشتید راجب به انتخابات آمریکا میتونید به ما ایمیل بزنید یا از خود کیوان ری توییتر میتونید سوال بکنید حتما آره. بتونید و تلگرام هم همین طور تلگرام هم هستی بله بله در تلگرام همون هم دوباره کیوان امام حسین ریسرچ کنم منو پیدا می‌کنم مگر چرا کیوان حسین منو من چرت شوخیمم فان کیوان حسینی دیگه‌ای هم هستن ولی آره توی تلگرام فکر کنم تنها کیوان حسینی هستم که کانال دارم اوکی پس در تلگرام و در توییتر کیوان حسینی رو فالو کنید ممنونم کیوان ممنون از تو و خدافظ Virginia Woolf and Poetry, no one seemed to notice me, being young is getting so old. Cheap beer and cigarettes, life is like a movie set, and I seem to be given no role. But in times of trouble, I can turn to my mother, and I know that she don't understand. So at age 18, I cried to my mother, and she told me, young man. There were moments when you fall to the ground, but you are stronger than you feel. You are now. You don't always have to speak so loud. No, just be as you are. Life is not always a comfortable ride. Everybody scars that they hurt, and everybody plays a fool sometimes. Yeah, just be as you are. <laughs> play me on the radio and everything was changing so i thought i was all the way grown but i can still remember in that cold november when i realized i'm all alone but in times of trouble i can turn to my mother and i know that she gonna understand so at age 22 i cried to my mother and she told me young man are moments when you fall to the ground, but you are stronger than you feel you are now. You don't always have to speak so loud. No, just be as you are. It doesn't matter if you become some star. Life is better when you open your heart. You don't always have to act so hard. No, just be as you are.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 اما در رابطه با مناظره انتخاباتی بین هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ یه سری توییت هم بود که با مزه بودن مثلا کاربری به اسم ترنزلیدر توییت کرده خودمونیم اگه آقا میذاشتن احمدی نجاد از این ور بیاد از اون ورم ترامپ میومد دقیقا حکم الکلاسیکو رو داشت بله دیگه البته همه تون استادین ولی من یه توضیح بدم این وسط که با... به بازیهایی که بین رال مادرید و بارسلونا اتفاق میفته بین تیمای بزرگ اینجوری میگن الکلاسیکو به اسطلاح یه چیزی مثل بازی استقلال و پرسپولیس یا همون دربی خودمون منطقه کم محیشتر و خفند یه کاربر دیگه ای به اسم رضا رستمی توی یه توییتی مجری مناظری ترامپ و کلینتون رو مقایسه کرده بود با مجری مناظری احمدی نژاد و موسوی و نوشته بود جا داره با دیدن مجری مناظری امروز یادی هم بکنیم از پور حسین مجری مناظره های انتخاباتی سال 88 که رسما نقش کرنومتر رو ایفا کرد بله دیگه راست میگه یکی از کارهای مجری توی برنامهای اینجوری مناظرات اینجوری کنترل بحث و حالا گاهن جهتدادن به که در از مسیر خودش خارج میشه ولی خب ظاهرا مدل مجریگری ما با مدل مجریگری اونا یکم فرق داره یه کاربر دیگه به نام فرشولینا اگر اشتباه نکنم به یکی از احسارات هیلاری کلینتون که ایران رو مسئول هک شدن سایت های دونسته بود اینجوری پاسخ داده کلینتون از سرعت اینترنت ما خبر داره که میگه ایران سایت های امریکایی رو حک کرده بابا ما اکس ها رو از روی کامنت های زیرش تصور میکنیم بله دیگه خدایی اینو راست میگه البته وصله ای که دیگه به ما نمی‌چسبه. نه اینکه ما توانایشو نداشته باشیم و امکاناتشو نداریم کاربر دیگه هم به نام احساس که انگار نظرش به دونالد ترامپ نزدیک تر بوده توییت کرده که همینایی که میگن ترامپ و طرفداراش احمقان اگر جملات ترامپ رو ک کنی پایینش به نویسی هیلاری کلینتون گفته کف و سوت میزنن خب بله البته این هم حرفیه و نظر و احساس شخصی آقا یا خانم احساس یه جورایی البته درستم میگه چون خیلی از ماها خیلی وقتا نمیبینیم که طرف چی میگه نگاه میکنیم ببینیم کی میگه. چیزی تو چه چشاته که من یک نگاه تو رو به یه دنیا نمیدن که بعد از تماشای چشمای تو از و زمان آشغانه بریدن تو با کل رویای من اومدید ساتو سی سالگی زیر زیر روشه موسیقی موسیقی که زیبا خط شرای من از تماشای چشم، تو هر شب شروع شه اومدی تا بره وصل دیوونگی شدی آرام بشه کل این زندگی با تو هر ثبتی برام آرزو همون هست کی به جس همون اومدی تا بره فَسْتُ دِعُبُونگی شدی آرام بشه کل این زندگی با تو هر ثبتی آشقان برام آرزو همون کی به جس همون هست سپر گرفتن گرفت چشای تو تا پیش چشم منه اگه میشه این حالو از من گرفت تمام وجودم رو هر تو دریای فکرت رو حل میکنم نگاه کن واسه که تو با منی چجوری خدا رو بغل میکنم تا کار سی سالگی رو از احسان خارج امیری شنیدیم. بالاخره بعد یک فاصله یک و نیم ساله شهری ماه شهری و ماه گذشته و شتمین آلبوم احسان امیری به اسم سی سالگی منتشر شد. علیرضا افکاری، هومن نامداری و اکبر شاهی برای این آلبوم آهنگسازی کردن و یکی از نکاتی که این آلبوم رو جذاب میکنه اینه که ترانه های این آلبوم رو دو ترانه سرای توانا یعنی روزبه بمانی و افشین یاداللهی سرودن. البته اشاره بکنم که احسان خواجاعمیر قبلا هم با این دو هنرمند همکاری‌های خیلی موفقی کرده. همونطور که گفتم این آلبوم آلبوم هشتم هست و از احسان خاجه امیری قبل از این آلبوم هفت آلبوم دیگه به اسمای منو بابا برای اولین بار سلام آخر فصل تازه یه خاطر از فردا عاشقانه ها و پاییز تنهایی منتشر شده تا الان برای علاقه‌مندان به موسیقی کلاسیک هم دو تا پیشنهاد دارم. اولی رسیتال پیانوی آقای فریدون ناسهی هست که امشب ساعت 9 توی تالار وحدت برگزار میشه. پیشنهاد دوم هم مربوط میشه به کنسرت گروه کر آوازهای رمانتیک که فردا شب یعنی جمعه نهم م نهوم مهرما. ساعت 8 شب توی سالن رودکی برگزار میشه. در ضمن گروه گره امروز و فردا یعنی هشتم و نهم مهرما ساعت نهانیم توی سالن نهانی شب توی سالن برج آزادی کنسرت داره قیمت بلیت این برنامه بین پنجاه تا هفده هزار تومانه. کاری که میشنوید کار نجات هست از گروه گرهبند که همونطور که گفتم امروز و فردا کنسرت دارن توی سالن برج آزادی دیگه نجاتم نمیده صدای جیغ دی دیگه نجاتم نمیده آبردن یه زرشان جوچم نمیده حتی فرار از محلکه این دفر از صبحا زدن بیشتر شبیه شکلاکه. نجات من ممکن نیست این بم خونسا میشه تو مغز تک بغدی من چیزی جز اشت جا نمیشه نجات من ممکن نیست حتی اگه خیال خامه فکر کنم از دستطور راحت میشه خب خبر خوب دیگه مربوط به هفته گذشته اینه که آلبوم جدید استاد شجریان به نام طریق عشق دوشنبه گذشته توی تالار وحت رونمایی شد همونطور که میدونید استاد شجریان بعد از یه دوره طولانی درمان از آمریکا برگشتن و هنوز هم تو خونه تحت درمان هستند به همین علت این مراسم با اجرای همایون شجریان پسر ایشون برگزار شد توی آلبوم طریق عشق میتونید اجراهای سالهای گذشته استاد رو در کنار شادروان و پرویز مشکاتیان و گروه آرف بشنوید اشعار مولانا و حافظ اجرا میشه روی موزیکا چهرهای سرشناس زیادی توی مراسم حضور داشتن مثل آقای داریوش پیرنیاکان حمید نوربخش که خسرو و تحمورس پورنازری، داوود گنجهی، اردشیر کامکار و لوریس چکناواریان و استقبال خیلی خوبی از این برنامه شد در حدی که جمعیت خیلی زیادی حتی نتونستن وارد تالار وحدت بشن با هم قسمت‌هایی از اه... یکی از آهنگ‌های های این آلبوم رو می‌شنویم. تصنیف دل مجنون رو میشنویم از استاد محمد رزا شجریان صدای ما رو از ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا میشنوید ام پنجشنبه بعد از ظهر میریم خونه با اهل و عیار و بچه‌ها نهار میخوریم بعدش هم اگه بشه شب بخیری میگیم شب بخیر فرجی شب بخیر شب بخیر همگی یک چیز خیلی خیلی مطلب خیلی کوتاهی میخوام بگم. یه لحظه لطفا گوش مسئله خیلی مهمه. یه لحظه آقای موزیک هم قطع کن. یه موزیکم موزیک قطع کن. تو این یکی دو روز گذشته شیمون پرز رئیس جمهور سابق اسرائیل فوت کرد و سیما جمهوری اسلامی خبر مربوط به فوت ایشون رو اینجوری پخش کرد. یعنی آقای حیاتی تشریف دارن در این بخش خبری این هم بخش خبری شبکه اول سیماس لطفا دقت بفرمایید. پرز مرد شیمون پرز رئیس سابق رژیم سهیونیستی که دو هفته پیش به بیمارستان منتقل شده بود امروز خبر مرگش در 93 سالگی تأیید شد او در قبال موضوع بازگشت آوارگان فلسطینی و مسئله قدس هرچند مواضعی سخت داشت ولی در مذاکرات سازش با فلسطینی ها نقش هویج را ایفا میکرد <تصفيق> آقای حیاتی آقا تو رو خدا زنگ زنید به ما بگید این فایل فتوشاپ بود تو رو بابا آخه تو بخش خبری و رسمی رسانه ملی مملکت حوید چیکار میکنه؟ حالا پرزمردتون مردتون هیچی اونو بی کنار خب پس ورده از مسئولین نظام با هم فوت کردن خوبه تلویزیون اسرائیل بگه فلانی در برجام نقش کدو و رو ایفا میکرد؟ خوبه؟ بساتی یا؟ سردر بیارم که تو فکر تو چی بود چرا نمیشه انگار همیشه پاسد دست من رو بود. یه بیماریه که هر سالالیه توری ازت مریسم عجب شبیه نظر بقیه بیا سمت تنسیزم حالا پشت تو به یه نگاه به ما کن مام یه نگاه به تو با یه نگاه به م میگم تو بخوای تموم واسه بار چندم میگم تو بخوای تموم واسه بار چندم شلوش به سلامتی؟ شقق دم شد تو تی. حال من خراب با تو ساکت تو خیلی بدم نکی. تو تو اصل سلام همه هر فوت خزد و فقق دم با خودم دمون عوض هاول و هوام مهم خودم و مهم خودتی مهم خودمونیم ختم می حالا خوشت تو نگاه به جمع نگو به کن منم یه نگو به تا با یه نگاه به مردم میگم تو بخوای تموم واسه بار چندم میگم تا بخوای تموم واسه بار چندوم نوش نوش به سلامتی چقدر امشب توتم الی من خراب بتو زو که تو خیلی برا من کی تو تو مسالو مسالو همه حرفات خازل رو فقط دم شاب بخو دوستان حتما میدونید برنامه هفت یه برنامه هفتگی سینماییه که با تهیه کنندگی و اجرای بهروز افخمی از سیما جمهوری اسلامی پخش میشه ویژگی این برنامه اینه که کلا تو هاشیه است حالا گاهی وقتا یه کمی هم به سینما میپردازه البته این مسئله با وجود شخصیت های جذابی مثل استاد افخمی و پروفسور مسعود فراستی کاملا قابل پیشبینیه منتها این عزیزان به بعضی فیلم‌ها و شخصیت‌ها که میرسن رسما شمشیر رو از رو میبندن یکی از اون شخصیت‌های تحت تعقیب این برنامه عسقر فرهادیه و طبیعتا الانم که خب فیلم فروشنده روی اکران و خوبم داره میفروشه این تپه تعقیب بودن بیشترم شده مثلا تو برنامه هفته گذشتهشون دوستان حسابی خدمت این فیلم رسیدن مونتا قبل از این اینکه خدمت فیلم فرهادی و خودش برسن یه کار جالبی کرده بودن و اون اینکه یه منتقدی دیگه به نام شهاب اسفندیاری راورده بودن تو برنامه و ایشون تا حدودی موافق فیلم عسقر فرهادی بود ولی قبل از این که بحث به فیلم فروشنده برسه این آقای اسفندیاری یه نقد خیلی اساسی به نقده های آقای مسعود فراستی داشت که جالب بود گوش کنید بعضی نقده های مسعود واقعا نقد نیست مثل عملیات تروریستیه بم کار بیخ فیلم میاد اقعا وای میسه بوم به ساعتی بعد یه انفجار بزرگی شکل میده یه عده اونور سوگواری میکنن تو سر مغزشون میزنن یه عدهم شادمانی میکنن بقیه هم تماشا میکنن البته ایشون شکل و شمایل آقای فراستی رو هم توی ماجرا دخیل میدونست این هیبت و ریش مسعودم غلط اندازه فکر میکنن ایشون مثلا عضو عزب انصار عزبولله و یه عده ای می میشینن پشت جلسات محفلی مثلا که آقا مثلا اینو بزن اونو بزن. اینجا که شد آقای افخمی دلش به حالت مظلومیت مسعود فراستیش فراستیش که اومد به میدون و از شجاعتشون در نقد فیلم فروشنده دفاع کرد فشار روی مخالفین منتقدین فیلم فروشنده انقدر زیاده که بعضی‌ها مثل سعید قطبی زاده میگن ما دیگه نمیایم برای نقد از فیلم فروشنده توی تلویزیون حاضر بشیم اما از اینجا به بعد آقای افخمی بحث رو برد به سمت چشواری کن و با توجه به اینکه این چشواری این خبطی کرده بود و به فیلم اصغر فرهادی جایزه داده بود آقای افخمی بر یک سری از نظریات قدیمیشون در مورد این چوار پافشاری کردن گوش کنی اینکه جشنواره اه... کن به فیلم هایی که مربوط به اقلیت های از قبیل لزبیان ها و همسکسوالاست اوان چه او غیر سینمایی میده یعنی اینکه اگه دو تا فیلم تو شرایط مساوی باشند، از لحاظ آرشای سینمایی اون فیلمی که طرفدار گیه یا موضوع گیه ها یا لزبیان ها رو مطرح کرده برنده میشه جایزه میگیره این مطلبیه که هیچکس این کار کنه بله بعد در ادامه فهمیدیم که نبابو اصلا اینکه داورای کن به فیلم فرهادی جایزه دادن به خاطر آقای افخمی و نظرات مشعشع شون بوده. ایشون هم تذکر هم گذاشت که توی جشنواره امسال، جشنواره کن و هيئت داوری جشنواره کن تحت فشار قرار بگیرن که شما متهمین به اینکه جایزه فیلم گذاشته رو ندیدید. اصل جشنواره کن متهم به اینکه جایزه فیلم گذاشتن ندیده و این جوریه که این فیلم سست و ضعیف فروشنده با این فیلم فیلمنامه سست و داغونش جایزه‌شو مرهون آقای افغمی و برنامه‌چی که میگه چرا به فیلم‌های و یا لزبیانا همش جایزه میدین؟ اه، بی‌تربیتا. و حالا که فیلم فروشنده رو می‌بینیم با این فیلمنامه سست جایزه گرفت من فکر ما کرد بله. بعد این آقای اسفندیاری دفاعی کرد از جشوری کند و گفت که بابا مایکل مور کارگردان آمریکایی که تو جشوری کند جایزه برده الان مهمون سردار نقدی خب اینو کجای دلمون بذاریم منم مهمون سردار نقدی هم از تو جشوره مقاومت مور دلیل نمیشه بزنیم آقا برنده جشوریه هم جنسگراها در جشوریه مقاومت برنده جشوریه هم جنسگراها در جشوریه مقاومت خلاصه بحث در این حد داشت ناموسی میشد که آقای اسفندیاری ماجره رو کشون به تاکتیک های بی‌ناموسیه امثال آقای افخمی و فراستی برای حمله به فیلم فروشنده یعنی اصلا فضایی شده بود که آقا هر کی از فیلم فروشنده دفاع کنه بی‌ناموسه در این حد که به حاجی آقای خاموشی رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات میگفتن تو با خانوادهت میری فیلمو ببینی اینجار یه فیلم پورنه اوه ها او رو دور کنین از رادیو تو رو خدا وضعیت پیچیده شد در ادامه آقای افخمی سعی کردن خیلی محترمانه با منتقدان برنامه‌شون و نگاهشون نقد کنن و گفتن آدم های 20اد که اصلا فرق بین کن و سلوغ رو نمیدونن و اظهار نظر زیادی هم میکنن راجر جشوار ها رو اصلا ما کاری نداریم بله و در ادامه ایشون به عنوان تهیه کننده و مجیه برنامه که فیلم های دیگران رو به قول این آقای اسفندیار و روش های تروریستی منفجر یا به قول خودشون نقد میکنه او خجه نقد پذیری و منطق خودشون و نشون داددن اگر این، اشکال برنامه هفته ما همچنان رو این اشکال پافشاری می کنیم در آینده هم همچنان پس منتقدین عزیز برن سماقشون رو بمکن چون آقای افخمی ماشاءالله هزار ماشاءالله الان با صدا و سیما بسن و تلویزیونی دارن از معصومین هستن و همین چه هست کلا فقط یادم میاد که ایشون یه زمانی تو انتخابات مجلس ششم اصلاح طلب سفت و سخت شده بودن و از همین طریق هم نماینده مجلس شدن بعد اون موقع با شلوار جین میرفتن مجلس و از فضای بسته و اصلاح نشدن حکومت نقد ناپذیرش مینالیدن بعدن بازم که خوب میکنیم. یاد یادمون میاد که استاد افخمی ده سال پیش حدودن برای فیلم گاوخونی خودشون شخصا ایشون تشریف برده بودن جشواری کن بله رو فرش قرمز جشواری یکی از نظر ایشون جای هم جنس گراها و نمیدونم به قله ایشون منهرفینه به علاوه بهرام رادان و بهاره رهنما و کتواژ می‌رفتن اونجا آخه میدونین که اون موقع ها جشوری کنجای معصومین بوده الان که کسای دیگه میرن دیگه مال گیا و ها و ایناست دیگه چی بگم مال حالا جالبتر تر اینکه وقتی بهرام رادان بعد از موفقیت فیلم فروشنده تبریک پرملات به فرهادی گفت طهنی هم به استاد بحث بازم ناموسی شد و خانم مرجان شیر محمدی همسر استاد افخمی تو اینستاگرام حسابی شاخوشونه کشید برای رادان که بچه جون تو دیگه حرف نزن نمونم تو رو شوهر من برده کن نمونم از یه حرفا حالا بگذاریم برگدیم به بحث شیرین استاد فراستی که در ادامه همین برنامه به این شکل مفصلا از خجالت فرهادی و فیلمش و فیلمسازیش در اومدن به ادبیات ایشون لطفا دقت کنید روشنده به نظر من ما قبل بده تو همه این زمینا در زمین فیلم نامه هنوز فیلم نامه نیست در زمین کارگردانی به حدی غلط های تکنیکی داره که اگر کسی دیگه ای غیر از فرهادی ساخته بود خوش میکردن فاجعه است کار گردان یعنی اینکه داره شلوغش میکنه رئیس و دوربین رو کولش به جای روداست در واقع داره آشفتگی میکنه همه چیز رو که ما چیزی نبینیم این یه ترفند فرهادیه که بلد نیست سوسپانس ایجاد کنه یه جای مهم رو حذف می‌کنه بعد غافلگیری ایجاد میکنه ایجاد طریق کارگردان میخواد ایچکاک میخواد و آدمایی که در حد اون پایین تر ولی اونجوری نگاه میکنن به جهان و فرهادی چون که گونه ولد نیست پشت چه پنهان میشه پشت این سالها پنهان میشه پشت اون حصف دیگه به اصطلاح سبکش شده چون رزا صفحایی فیلم فارسی هم سبک داره به این معنی این نیست؟ نیستی ناتوانیه بله شست و روفت و پنگ کرد جلو آفتاب از خب استاد اینا که گفتید ناتوانی های فنی آقای فرهادی بود حالا ناتوانی های محتوایش رو هم بگید خب استفاده ببریم لطفا یه دکمه داره دکمه حریم خصوصی بر مبنای این دکمه میخواد پالتو بزوزه قصه نداره شخصیت نداره فضان نداره هیچ کدوم اینا رو نداره اصلا با این حساب این فرهادی چطور به خودش اجازه میده به سینما فکر کنه ها برو از خرجای مغازه چیزی بزن باقالی لبوی چیزی بفرو چون استاد فراستی کلا شما رو سوت تفاهم میدونه تو سینما تو جمله که به کار میبری رو هم که اینو اون بهت می رسونن آقای فرهادی اخیرا فرهادی یه جمله یاد گرفته یکی بهش رسونده <تصفح> جمله هاکس که ما دیگه میخوایم پیام بدیم ببین چه خونه. اینو فرهادی گفت زوکر زوکر باز هاکس روش وایس داده این آقای هم فهمیده بله خلاصه دوستان تو تلویزیون ایران سفریی به نام برنامه هفت پن شده که استاد افخمی هم توش سر و شپسز استاد فراستی هم مواد با اولیه رو فراهم میکنه یه نون و بعد و بیراییم از توش در میاد دوستان دورن میخورن دیگهکلا اینجوری بعضی یا باد سنجشون خیلی قوی خدا وکیلی ها یعنی باد نمایند مجلس به وزه اونوری قش میکنن باد برنامه هفتگی زنده به وزه اینوری ولو میشن اونتا همه که از این باد سنج ندارن این قابلیت ها رو حتما باید یه افخمی باشی تا داشته باشی این فکس چه فااققا ای اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید. اگر نیت ده ساله دارید درخت پرس کنید اگر نیت صد ساله دارید آدم تربیت کنید سیرومتوگراف آدم تربیت میکنید رسیدیم به ایستگاه سینما و بابک قفولوری سلام سلامسلام سلام, سلام فررشید اممیدوارم که تا کنون خیلی خوب برنامه پیش رفته باشه قبلش هم که حسابی هقا فراستی بابات ترکون آقای فرهادی رو این بیچاره رو هست خیلی عجیبه این موزگیری که آیا افخمی داره از ابتدای موفقیت فیلم فروشنده توی کن همین روند داره ادامه میده خیلی آدارن تعجب میکنه یعنی اصلا تو این یک سال اخیر عمل کرده بهروز افخمی باعث شده که همه بپرسن که ما با کی طرف بودیم حالا چه جوری شده آقای فراستی هم که کلن مخالف سرسخت از غرف فرهادی کلن از اول تا آخر دقیقاً. از ابتدا همین جوری بوده برای فراستی خیلی عجیب نیست همه دارن در افخمی تعجب میکنن درسته. خب چی داری امروز برامون؟ صحبت هایی که درباره فروشنده شده تو ایران و مسائل این فیلم ادامه داره اما بد نیست یه نگاهی بکنیم ببینیم تو سینمای جهان داره چی میگذره و اتفاقات چگونه اونجا داره رخ میده موضوع اینه که یک فیلم خیلی جالب بر پرده سینما ها هستش فیلمی که برای بینندگان قدیمی اونایی که الان دیگه چل پنجا سالشون و عشق سینما های قدیمی مم. شاید جالب باشه چه فیلمی, فیلمی است ما ایرانیا به نام هفت لواور میشناسیمش و به همین نام هم در ایران اکران شده چهل سال پیش. این فیلم باستادی خیلی فیلم موفقی هستش از آکیرا کوروساوا کارگردان شناخته شده ژاپنی به نام هفت سامورایی آها. سال 1341 که شمسی نسخه آمریکاییش در ایران اکران شد اون زمان خیلی تبلیغ شد درباره که خیلی بازیگران شناخته شده درش حضور دارن انصافا همین هفت دلاور بله بله همین همینطور طور هم بودش فکر میکنم من تو دیری میشی 1960 میلادی میشه 1960 اونورا میشه 1341 که ما هستش تولیدش و همون هول هم و دوبله خیلی خوبی در ایران اکران شد یول برینر، چارلز برانسون، استیو مک کوی دیدم فیلمه خیلی قدیم دیدم مثلا یادم آدم نمیاد همه هممون تو اون نسخه های ویدیویی که آره. مخصوص متن او... بعدتر اگه نتونسته بودن تو سینما ببینن رو نسخه های ویدیویی حتما دیدنش خیلی فیلمی معروفی بودش به خاطر اینکه اون زمان گفته میشدش یک لشگری از ستارهگان در فیلم حضور داره همه اون هفت بازیگری که نقش این هفت نفری که میان که از این دهکده دفاع بکنن و بازی و ام. به عنوان یکی از فیلمایی خیلی شناخته شده تونست موفق باشه کارگردان فیلم هم که جان جس بود اون زمان خیلی کارگردان شناخته شده ای بود فیلم های خیلی موفقی داشتهش مثل فیلم آخرین قطار گانهیل مثل فیلم فرار بزرگ که باز هم برای علاقه مندن اسرییک و کوین خیلی شناخته شده داره. از اون فیلم تلویزیون ایران هم بارها نشونش داده داستان فرار از اون زندان خیالی در زمان جنگ جهان دوره الان گفته این فیلم بازسازی شده این بازسازی شده دوباره با تم جدیدتری داستان یه مقدار جلوتر اومده در اواخر قرن 19 میگذره و تیف بازیگران دیگری در این فیلم ایفای نقش کردن با تبلیغات خیلی گسترده یه هم نمایش داده شد هفته اول نمایشش بود در سینماهای کشورهای مختلف دنیا و از جمله آمریکای شمالی آمریکا و کانادا و به نسبت هم موفق بودش هرچند بینی میشد خیلی عملکرد بهتری داشته باشه بازم بازیگرای سرشناس اینا هستن ابتدا پیسی. قرار بودش به همون نسبتی که اون نسخه چهل سال پیش بازیگران تیپ خیلی زیادی از بازیگران معروف باشن با افراد مختلفی صحبت شد مهم. که بیان بازی کنن الانم بد نیستش دنزل واشینگتن همون نقشی رو بازی میکنه که یول برینر چهل سال پیش بازی کرده بود البته نام نقش ها عوض شده یا ایتن هاوک هستش یا کریس پرات اما خب اون تیف بازیگرانی که اون چهل سال پیش بودن خیلی شناخته شده تر بودن میشه گفتش که اون لشکر ستارگانی که گفته میشد اون زمان خیلی مستاق بهتری پیدا میکرد کی ساخته این نسخه جدید رو؟ آن تو این هستش کارگردان فیلم که برای تماشاگران شاید فیلم ترینینگ دی روز تمرینی که باز هم دنزل واشنگتون بود ده سال پیش به نمایش در اومد نسخه هم خیلی تو ایران زیاد اومدهش رو دیویدیو اینا دو سال پیش هم یک فیلم اکشن ساختش به نام المپ فروریخت داستان خیالی هستش که بخواد حمله کنن به آمریکا تروریست ها و حالا بعد نیست بتونیم یه قسمتی از صدای فیلمو بشنویم مگنیفیک دید Pity. I had just ordered a drink from that man Took a job looking for some men to join you Is it difficult? Impossible How many you got so far? You and me This film year, is a new film Clint Eastwood's film He has been released by Clint Eastwood He has been released by Clint Eastwood In 80 years, he has been It's strange thing He has been released که با چه توانی و با چه نیرویی داره اینجوری در همچنان رده اول و بخش اصلی سینمای آمریکا فعال هستش فیلمهاش هم همچنان های موفقی هستن این فیلم جدیدش به نام سالی دو هفته صدر نشین جدول فروش آمریکا بوده این دو تا دو, دو تا فیلم با هم اومدن یعنی و اکران شدن سالی دو هفته شدن. زودتر اکران شد دو هفته در صدر جدول اکران آمریکا قرار گرفت و هفته لاوتر اومد تونست بکشتش پایین و اون رو رفع اول شد الان در رده دوم الان فیلم سالی هستش اونم خیلی فیلم جالبی هستش یک داستان واقعی درباره یک خلبانی که توی یک پرواز استراری میتونه این هواپیمایی که در حال سقوط هستش رو دو موتور خودش از دست میده روی رودخونه تاشون نگو دیاره. بابا تاشون نگو <تصفيق> همه رو گفتی سوخت تموم شد الان فیلم... فیلم بعد فیلم از این ماجرا هست و خیلی همه رو تاشون نگو سرنوشت <تصفيق> خلبانا است که بعدتر با چه مسائلی روبرو میشه اوکی بعد نیست احتمالاً فکر کنم تا دو هفته دیگه ما الله همه تو ایران تو ایران فکر کنم همین الانشم هم داره دی و دی وی حالا ما رسیده. یه <تصفيق> هفته دیگه شانس می‌بینیم احتمالاً آره. یه هفته دیگه بتونن همه ببینن یه پیشنهاد ما امروز راجع به فیلم کمدی حرف زدیم تو برنامه یه پیشنهاد فیلم کمدی هم بده بهمون یا چند تا فیلم کمدی که خود دوست داشتی و خیلی خنده‌دار برای شب جمعه اگه خونه بوداها دوستان می‌خوام بشینن فیلم ببینم من من به خودم باشه من البته فیلمای ایرانی رو من ترجیح میدم انتخاب بکنم حالا دلایل شخصی خودمو داره اما مثلا من هنوز که هنوزه من به اجاره نشینا در حالی اجار... که میدونم که در پلان بعدی در سکانس بعدی چه اتفاق, اتفاق, اتفاق میفته باز میخندم اونایی که خیلی میخوان مثلا ده یادشون بیفته دهه 70 اینا هم چه گذشته مکس رو میتونیم پیشنهاد بدیم اونم جالب بود سلطان جلال هم پیشنهاد داده بود فیلم مکس و یه بخشی از ترانه ده... فر خونده بودم اون رفتیم اول برنامه برای سوال مقدم و مثلا شوخی هایی که همین آقای افخمی که الان این همه خبرسازه فیلم سان پیترزبورگش پنشی سال پیش خیلی فیلمی بود یک نوع کمدی مدرنی داشتش جالب بود شوخی های جنسی با هم تو فیلم شده بودش و یه نگاه خیلی به روزی در فیلم بود و الان خیلی همه مشتاقن آیا آیا ای افخامی با این نظراتش میتونه دوباره مثلا همچین فیلمی بسازه یا نه متحول شده کلا <تصفيق> <تصفيق> متقلب و متحول ممنونم ازت بابک قفوری اذر بابک قفوری آذر رو کجا میتونن فالو کنن روی توییتر روی کجا توییتر بله ب... ب... ب... با شناسه بابک آذر بابک آذر در توییتر بابک قفوری آذر رو با شناسه بابک آذر فالو کنید ممنونم ازت تا هفته آینده خدافظ که پشتم چی میگن نرف محزدن رو کشن می بینن تکشون رو توی مشتمگیرم میگیرم برون بایسی رششن میشی و همدم شدم توی محیط رو رفتم ب زمین تختم اتفااق رفتم که عجیین باشم شدیم ساعت بعد برویم با هم خیلی ها آره به خودم امید وار کرده. چهی باشم ببین من این کارم ببین؟ کار ببین حتی اگه مسدول او من بشین. you ain't can't did it all to taj hey down hey down hey down eradam khayri aman o akhar keshid khodam o hey that. hey that. hey, that. hey that. صدا از آواز و دوست دارم رو از تیک تاک شنیدیم فرشید، در گروه, مد... گروه تیک تاک آره گروه تیک تاک و A2 در حقیقت بله که بالا آلبوم جدید منتشر شده ازشون به نام کولاج هفته گذشته و یه آلبوم دیگه هم داریم حالا که در مورد تیک تاک صحبت کردیم و A2 یه آلبوم به اسم پیر شدیم ولی بزرگ نه از علی رضا جی جی و سیجال منتشر سی شده سیجال سیجال در حقه سی خب الان هفته دیگه از این علی رزا جی جی و سیجال سمی کنیم پخش بکنیم. الان یک ماجرای رو میخوام براتون تعریف کنم یه ذر موزیک برو شهر رو ذر... میذارم خانوما دکتر خانم‌ها آقو به سر دو روز پیش فرمانده کل نیروی دریایی یعنی دریادار حبیب‌الله سیاری مصاحبه کرده بود در مورد اون کلیپ معروفی که امیر تتلو رو ارشی یکی از ناوهای جنگی نیروی دریایی ضبط کرده بود یه سری توضیحاتی داد من جمله اینکه ایشون گفتن وقتی درخواست مجوز شد برای این کار اسم هنری ایشون یعنی همون تتلو اصلا آورده نشد و گفته شد شخصی به نام امیر حسین مقصودلو قرار و این کار رو اجرا کنه و ما هم چون نمی‌شناختیم ایشونو خب با شرط و شروطی اجازه دادیم جالب یعنی فکر کن این جای امیر حسین مقصودلو مثلا میگفتن فائقه آتشین یا ابراهیم حامدی میخواد رو ناو بخونه اتمالا گوگوش ابیم عبی هم میتونستن برن رو عرشه ناو جنگی کلیب زبط کنن فکر کن آقا مثلا ابی اون آهنگ خلیج فارسشو میخوند تو خلیج فارس چی میشونده؟ در دست سالودم بر لب همه ایران رو می بوسم من خورشیده هزار خورجش رو برخورده با که نیو بیش من خوشیده هزار خورجش ساز می عش ما نه. یعنی چه کلیپی میتونست ابراهیم حامدی جلو جایی مثلا تطلیب پشت ناف دام ناف دماوند بسازی یا آقاسی فکر کن اسم غیرهنری آقاسی هم نعمت الله است مطمئنم دریادار سریری ایشون هم با اسم غیرهنریشون نمیشناق فکر کن آقاسی میرفت رو عرشه ناف جنگی لب کارون میخوند مثلا ها؟ آها بیا بیا یعنی واقعا بعیده موقع ضبط این کلیپ تصیبه توی ناب خبردار بایسه. بیا آقا لبی کارون چه گل بارون شبا بی کریشی نندگی او الله قوا یه <تصفيق> و ها میخونم نظمه یه خوش لبی کار خبردار ها خبردار تو نا ما صفوان دل لبی شام پای نهطلا شبا چن گیم لبیکو رو بیا چنگل بارو مشو وقتی که میشینند دلندا دیونو بیا قدر غم ها میگونن اناتمیه خوش لبیک باش خوبه خوب آقا الان بالسا بس الان ناف چپه میشه برادر البته دریادار سیاری گفتن به خاطر این مسئله که تطلی اومده روی ارشیه خونده از طرف مقامات بالا توبیخ شدن ولی دیگه به جزیات این توبیخ شدن اشاره نکردن به هر حال هر هست خوندن رو ارشیه ناو جنگی قسمت امیر تتلو شد دیگه امیر تتلویی که این روزا پشت های زندانه و خیلی از طرفداراش منتظرن زودتر مشکلش حل بشه و بیاد بیرون و دوباره براشون بخونه و پست بذاره تو اینستاگرامش رو نمیدونم بغبغه کنه و این حرفا دیگه ما امیدواریم مشکل این خواننده جنجالی کشورمون که حرف مثبت و منفی دور و برش زیاده زودتر حل بشه و برگرده بین تاتلیطیا و دوره هم خوش باشه. اونا دیگه یلی اوکی خب اینو دیگه همه میدونن یعنی اونایی که نمیدونن هم بدونن که این کارم زندگی منه. دمی کار قسم هیچ کدوم حرفا این تو دروغ نی زبون بعضی وقت دروغ میگه اما این حرف دله فکش میکنی که پیرم، مگه تا و قدری تو ازم تقصی؟ ولی میدونی که شیرم، که حتی پیرش هم خطر آره راست بیگ خستم، ولی یادم خسته که هدف داره دست خالی چولو میره تنها دشگه هر کی که طرف داره. من مال پوری کرده رفقا همه دو چهار دردن از نو ما باب تا شمال لنده ولی ما مال دوره که موزیکات تهران رو مال چرده آره منم یه منزه در رفته که پولا شو در کردت پرت جاهی یه نابغه یه در به در خسته زبونش دف قربش قلبش عکس آره منم یه منزه در رفته که پولا شو در جاته جا نیستم حفاال که میشنبی راجبم راست نیستم همه زگیر رو هوا با قآریز کرد ولی باز به ذوررو پا وای میسم یه پدر ندارم، و مادر رویایی آخرشم نفهمیدی ماور کجاین؟ توی این سن آخر دنیا این بری توی این سن بدو همه خدایی. نکن از اون پزای تو داریم نرفتیم بالا ما رو دزار کوکین و درجان از از این دیر چرتای خماری دو دورمون بالا اومدن دزار شماریه خوش میرم خودم اوهی تصمیمبار که شل می گیرم حتی یه تصویر بردا تا به هم میزنه که تثیر از کار چون گرفته یه تصویر از ما به اون یکی هم که یا دا کم داشت اززکی دلش می آ قلو اسم این کار هست مغز در رفته کجا در رفته نمیدونیم مغز کی در رفتم نمیدونیم کلا پنید دقیقی یه تک میخونه بره. اجازه نمیده ما نفس بکشیم بیانیم آقا حتما معذرتخواهی می کنم چون دیگه یه روب دیگه برنامه رو هم تموم میشه سعید مخاط خدافظی کنه بعد دیگه دیگه کار داریم زندگی داریم آرزو که کم کم سعید خیلی خوب بودی امروز بیشتر با باش شما بیشتر با شما <تصفيق> بیشتر حتما ممنون که بودی و متشکرم منم تا هفته بعد خدافظی میکنم کنم و اما آقا خانوم عصر پنجشنبه و از هرچه چه بگذریم غیرو غنبیل خوشتر است خدایی 3 ساعت و نیم همینجوری نشستیم پای رادیو فردا کمرت خوش نشه ما که اینجا کمرمون خوب شد بالاخره به این ساعت‌های مقدس میگن شب جمعه میگن گناه کبیره است ما برنامه داشته باشیم مهمونی توش نخش نشو بچیم وقتشه دیگه رسوم رسومو به جا و شب جمعه یه تکونی به خودمون بدیم و انرژی انرژی انرژی پتانسیلمون رو به انرژی جنبشی یا به عبارت بهتر انرژی پتانسیل رو به انرژی غیر پتانسیل تبدیل کنیم آقا خانم دختر خانم آقا پسر با زبون, خوش با زبون خوش بیا وسط نزا کار به خشونت کلامی خدا نکت خشونت فیزیکی ها. بیا وسط این شما این حمید طالب زاده با ترانه تو کنارمی آها بیا همین بیا با. هزار دفعه میگم نه باید حتی بخوابی که توش دو نیستی سرز دوست دارم دیوون بازییم ما تو باشه روز و شب خاطر سازیم ما تو باشه دوست دارم پیش مونام تا همیشه لحظه ها هم کنار تو دیدنی میشه هیچ خمی تو دنیا نیست تا تو رو دارم این محال ممکنه تماد بزارم منحق بولون بده بولون بده تو کنارمی این اوج گروره نگاه کن بساته این آشقی جوره تو کنارمی این شوق کمی نیست دل من آشق میمونه دم دمی نیست تو کنارمی حالا هرچی که میخوام است نمیذارم دیگه ساده بری از, از. تو کنارمی حالا دیگه میتونم با یه دنیا عاشقی واسه بخونم خب حالا که مقدار هم کردیم خودمون بدنها آماده است قبل از اینکه اینا که نازو دارن بخوان هر کدوم از یکوشه گوشه جیم بشن برن بنشینن و اینا میخوام آقا آهنگ الان بذاریم براتون مقاومت سر و دست و شونه و کمر در برابرش تقریبا غیر ممکنه یعنی غیرترین و بدبدنترین آدمهام با این کار بابک تسلیمی خود به خود شروع میکنن به قدیمیه یه ذره اینا هنگ ولی درجه غیرتانسیلش بسیار بالاست نگی نگفتی؟ نگی نگفتی پس برو بریم همینه همین ها ها ها ها ها ها تو که موها افشون و پریشون میکنی دل خاطر خواه تو یک شب داغون میکنی میخوام باهاد برخصم دارم باهاد میرخصم میخوام بهت بچستم بهت بچستم مهمونی من با این اون کل میکنی آخه هر جا که میری دل منو خوم میکنی و منو پشیمون میکنی میخوام باهاد برقصم دارم باهاد برخصم میخوام بهت بچستم دارم بهت, بچسبم. دارم بهت بچسبم. بابا یه ذر بولون بدین به این گیرنداتون. با مسئولیت من اگه همسایی اومدنمی در بگیم فرشید منافی گفته بکنم هنو گرم نشد اینا جان آخ آخ فهمیدم بچه همجوری خوش خوش بدنشون تکن نمیخوره میدونین چرا اصولا بعضی از دوستان برای مشارکت فعال در مهمونی نیاز به یک انرژی اولیه دارن اونم نه یه ذره دو ذره انرژی ها خیلی انرژی اینه که هم صدا میشن به آقای ساسی و از آقای خانم ساقی درخواست های اینجوری دارن این شکلی ها ساقی ها بریز به نویز گر که نرخصم گله من دیمه ساقی ها پیک پیک پیک پیک پیک بریز به نویز هر که نرخصت گله من دیمه نویز کس ندانت چیست امشب امشب ماجرا پس بدون مطلی نوش کن بادرا بایی من و تو خال لباد باد سبا ایش نوش دوی نبا نان و محتاج طبیبیست امشبا ری ری ری ری نریز بابا بچا مست و پاتیل میشن نمیشه جمعشون کرد خب البته با, ز... با تلاش های ساقی عزیزمون مجلس گرم شده انجا به وقت هزار به دو دسته تقسیم میشن زوجا میرن وسط با هم میرقصن آقایون مجردا متازه فیلشون جاده هندستون میکنه چه جوری اینجوری که دختر خانم های خوشگل جذاب حاضر در مجلس میزان خوشگلی و جذابیتشون بعد از استفاده از مایع اته به هر شنگول کننده چنگول کننده برابر میشه از نظر این آقایون و با دیدن بعضیاشون حالاتی بهشون دست میده که میخوان طرف حسن سانسور بشه اصلا از بسک خوب لامسا خدا قسمت کن و این قابل دسترس، سنت فرد ایرانسر. به پول باباش فرآمین از دندول نمیاد و لباس بتوکسر. یهان من برو یه پیاز زد، چون او برنش میزنه من آب می گوش. تلفنات میزنه من آب جوش. شد شدم اون بازیگوش. میگه شکلاتم، میگم نه نه من شد لاتم. هوا ویژونش رو تو مستی فرق حال میکنی با مو فداش میگه گمش است در روم. تو اون دو بهش یا که اصلا نمیشن رام. تو که آدم نیستی انگار از فضایی hey. hey. زندگی می زندگی می داری کلی فدایی hey. hey. اینقدر خوبی که از اون بدایی من مریضم من مریضم تو دبای. بیا دبایی خدا قسمت کنی بودن دوستان شروع میکنم به استفاده از روش های تبدیل انرژی و چشمک زدن و لبخند و رستدن اه شما من قبلش شما رو کجا دیدم این حرفا و اینا چند دقیقه بعد میبینی رفتم مرحله بعد چه مرحله ای؟ نه نه نه نه نه اون مرحله نه مرحله ای دیگه دیگه, دیگه. دیگه لبخند ها تبدیل به خنده شده چشمهای برقی پیدا کرده میشه اینجا اصلا پاشد رخصید تا بچه ها ببینن اون وسط چ آره ايه. آره یک دو تا فیچر فردا سر من لابکون به همه میام مارکون میاد بیش امیر پول ازار باند بیش نی نی خودت سیکس میکنی نی نی شغلشیری نی نی نی نی نی نی. نی نی نی نی نی داریم یه مداری فرق داره ترانه بعدی کار جدید محسن چاپوشی ککشوری از مولانا رو به سبک خودش اجرا کرده امروز هم بر حال روز مولوی بزرگ داشت موی آقا اون خاان ما غیری غری نیستا رقص سماه بلدین بلدین دستا باز گردن و کج باری کلا همینه به چرخ تا بچرخیم ترانه دل من از محسن چابوشی به آقا به چرخ خسته جفو همای کنی بر بکنی بادل من وادل من وادل من وادل من وادل غاز کنی بر تن من شاد شود دشمن من وانگ هزیم خسته شود یا دل تو یا دل من واوله و شیطان دل من بی سر و بی پا من وقت سحر ها من رفته به هر جا دل من مرده و زنده دل من گر یهو خند دل من خواجه و بنده دل من حدو چو دریا دل من بی خود مجنون دل من خانه پر خون دل من ساکن و گردون دل من فوق سرای یار دل من سوخته و لاغر تو در طلب گوهر تو آمد رو خیمه زده بر لب دل یار دل من بی خود مجنون دل من خانه پر خون دل من ساکن و گردون دل من فوق سرای یار دل من سوخته و لاغر تو در طلب گوهر تو آمد رو خیمه زده دریا دل خب رقص رقص سما چطور بود؟ با سر در دیوار و بوفه و کموت که نرفتیم طوریتون نشده خب خدا روشو حالا عیب نداره خیلی رقص سما بلد نیست خب سخت هم هست آمادگی و تمرین لازم داره ولی یه مدل رقصی هست که همه براوچ بلدن و تو مهمونی هم اصولا خواهان زیاد داره نیاز به تمرین و آمادگی هم نداره اونم چیه ای گفتی دستا دستا آقا خانو دستا بندری بالا شب جمعه استا برو بریم با آقای امید جهان و ترانه شب جمعه تون دارم میبوسمتون گرونم و تون آخر هفته خوبی داشته بشید